اللهم صلی اللهم محمد و محمد اوزو بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم صبح شما به خیلی ارزاده احترام خب ادامه جلسه قبل رو ما بدون هیچ مقدمه سریع شروع بکنیم که بتونیم بخش امروز تموم کنیم و هرچی میشه تموم باشیم کنیم خب داشتم عرض می‌کردیم که در این فراز از دعای ندبه اشاره به این شد که هر قومی یک هدایتگری داره پیامبر انزار دهنده است و هر قومی هدایتگری داره و مراد از منظر پیامبر است و مراد از حاد هدایتگر و کل قومن حاد مراد امیر المومنینه رویت ها رو داشتیم میخوندیم رسیدیم به اینجا که این حاد شامل حال همه یعنبی میشه لکل قومن حاد از ما با آقر و امام صادق علیه السلام داریم که ما هادی هستیم انذار با پیامبر بود هدایت با اهلویج خب طب طبعا مشخص پروازهه این به این معنی نیستش که مثلا این انذار و هدایت صرفه اینکه پیامبر مثلا هدایت نمی‌کرد یا اهل بیت انظار نمی‌دادن نه بلکه شاخصه و خصیصه مد نظره این که مثلا شما میگید فقط به امام علی اجازه دارید شما میگید امیرالمومنین همه اعمه بزرگ بزرگمومنان هر وقت هستن این تردیدی نیستش اما این خصیصه مخصوصه امیر المومنین قطعا حضرت زینب سلام الله علیه اون دنیا از بالاترین درجات رو دارن اما سیده نسا اهل جنب حضرت زهر سلام الله علیه مال ایشونه قطعا حضرت مریم جایگاه بالایی دارن اما این خصیصه مال حضرت زهر حالا توضیح میدم اساسا اگر قومی هدایتگر نداشته باشه زبونش درازه ظلم بهش شده بیتونه بگه آه منم اگه پیغمبر می اومد برام و می دیدمش منم ایمان می آوردم جلوم هم چهار تا حساب نزید اشتها بشه آه دوره رواب بشید شطرت و کو بیرون بکشید ایمان میاریم پس میشه گفت به همان اندازه که اونجا حجت آشکار بوده خدا این الان حجت را آشکار خواهد کرد در همان حد و همان موقع که میتونسته انقلت های به این محجزات پیامبر وارد بشه میشود به همین حجت های آشکار الان انقلت وارد کرد پیامبر شقل غمر کرد حبو گفت پازا سهران مستمر گفت این سهر مستمریه که دائم هممون داریم میبینیم گردن نگیرف ناغه صالح وقتی اتفاق افتاد اونه اجاز بعدن که کشتن گفتن این سهر بود اون موقع نفهمیدیم بعد چند روز که فکر کردیم به نتیجه رسیدیم این سهر حضرت موسی اصان داخش شد فران برگشت کفیم بزرگ خود شما جادوگر است رئیس سنفتونه رئیس اتحادیتون رفتید آوردید اینجا به ما نگفته بودید فکر من متوجه نمیشم انا رب بکنم پس اگر قومی هدایتی هر نداشته باشه زبانش درازه همین ثابت میکنه که پس یک امامی باید باشد حجت را آشکار کند و تمام کند و جوری که هیچ کسی هیچ بحانی نمشته باشه اون امام هدایتگر برای تک تک افراد بعد این کار انجام. ده. چون کسی که بچه روحانیه بچه آیت الله الازمایه بچه مرزه تقلیدی تو اون خانواده روشت میکنه چون کسی که توی خانواده کاملا متفاوت و در یک اتمسفر دنیای دیگه رشد کنه هیچ فرقی نداره باید حجت تمام بشه. در سخنرانی که به امام آهات نمیشه قوان کردم همینو رو توضیح دادم اونجا رو برید تا حتما گوش کنید پیوست این جلسه هست که چطور میشه امامی که قایبه اینطور عجت آشکار بکنه که میکنن آیاتش خوندم روایاتش خوندم مثال های عینی از زندگی خودمون زدم امام صادق علیه السلام میفرماد خداوند هیچ پیامبر یا گرامی تر از محمد صلی الله علیه و آله مبعوث نکرده است و پیش از او کسی را نیافریده و نیز پیش از محمد هیچ کس خلق خدا را بیم نداده است یعنی چی؟ هیچ کس بیم نداده این هم پیغمبر این درش نکتهی ای و از موقع نفر که خیلی کار شاخصی میکنه در یک حوزه ای ما میگیم اصلا قبل تو کاری صورت نگرفته بود. در مورد علامه توا میگن آقا قبل علامه تفسیری نوشته نشده بود. این یعنی چی؟ یعنی چی که تفسیری نمیشته؟ حتما هست. این یعنی چی؟ این خیلی شاخص بوده. وجه ممیزه بوده. یه چیزی بوده که کاملا متفاوت میکرده. همین هم هست. ما در هیچ کتابی به اندازه قرآن، ارجاع به قیامت و اقاب و عذاب و اخروی نداریم؟ هیچ کتاب بقیه همین دنیاست مثلا شما اگه تورات بخونید تقریبا هیچ سورسی پیدا نمیکنید رفرنسی پیدا نمی کنید سویجگه تورات این که کاملا دنیاوی این کتاب حالا تحریف کردن چه بوده؟ یه بخشش تحریفه یک بخشش اینه که نه از اول اون انبیاء متناسب با اون زیست بشری انذار میدادن معاد حتما داشتن از بهشت و جهنم گفتن اما نه انقدری قرآن تحکید داره قرآن آخرت رو خیلی باز کرده هیچ کتاب دیگه اینجوری نیست شما عدیان شرقی، غربی، بالا، پایین همه رو بگردید ابراهیمی، غیر ابراهیمی هیچ کتاب اینقدر راجب بهشت و جهنم صحبت نکرده حالا بهش که دیگه انذار نیست راجبه جهنم همه توی اینقدر صحبت کرد. بیشتم سر جا خودش تو قرآن ما برای دوزخ هفت تا اسم داریم حد نقل هفت منو. هر کدوم چقدر تکرار شده به ما کلی هر کدوم تکرار شده اصلا حاویه به گودال آتیش گفته میشه یعنی نو آتیشش هم نگه میگه اون تو گیر میفتی جهیم آتشی که به شدت برای فروخته شده باشه 26 بار در قرآن تکرار شده 25 بارش اشاره به جهنمه یک بارش اشاره به آتشی که برای حضرت ابراهیم نمرود ساخت ببین چه آتیشی درست کرده بودن این آتش سوزیه میشی که اصلا دیگه نمیتونی نزدیکش بشی فقط بعد وایسی تو رو ببلعه آتش ماده اولیاش تموم بش میتونی نزدیک بشی انقدر این آتش قوی میشی که حتی آبم اگه بریزی آبو تجزیه میکنه ازش اکسیژن میگیره بیشتر میسوزه یا یه تا یه حدی از آب استفاده میکنن بعد اون دیگه نه از خفه کننده استفاده میکنن اکسیژنشو میگیرن بر حضرت ابراهیم همچنان آتیش درست کرده دن انقدر این آتیش گسترده شد میگن روزها ها اینا چوب جمع کردن ریختن رو هم وقتی این آتیش به اوج خودش رسیده بود نتونستن نازی بشن با پرتش را دور. سقر. سوختن که موجب دگرگون شدن بشه آتش دگرگون کننده آتش زوب کننده آتشی که زوبت کنه به میگن سقر برای این تکرار داریم اینا هر کدوم چقدر تکرار شده گفتم فقط همین مثلا جهیم 26 بار تکرار شده در قرآن 25... یکیش دنیاست 25 داشون بره ختمه آتشی که خورد میکنه این چوب میندازی توی آتش صدا تق میاد صدا شکستنش میاد آتشی که بند بندو از هم جدا میکنه خرد میکنه حتی ما در زبان عربی برای شیشه استفاده میشه برای شکستن استفاده میشه شکستن شیشه رو میگن حتان کلا هومه برای شکستن حروف جا بشه بینش نوع شکستنه عوض میشه حشم؟ یعنی نون تیریت کردن هاشم جده پریانبر میبود که از خودش میزبانی میکرد از مهموناش که میامدن حج خودش نون تیریت میکرد براشون هده همه شکستنی که حزم کردن لح کردن امیرانوان بر از زهره همین نفس استفاده میکنم یه امت تو هی پیانبر وقت داری دفت میکنن زهره رو امت تو او را حضم میکردن شکستنی که قضا چطور هضم میشه لح میشه اون یا نوع شکستنی این قطمه آتش است که بقیش هم اینها هست همه نمیدونم این اصلا همه بیجیگه زبان هست ریشاد دو حرفیه در عربی حرف ثبان به اون حالت میده بخواهم گفتم یه جا من راجب خلول خون موارک عبا عبدالله در کربلا صحبت کردم اینا نفهم میدن چی گفتم یه بیلش کنی یه جواب اینها رو که حلله و حوله و نمیدونه هر همه یه حرفه چیزی بین دو چیز دیگر قرار گرفتنه حالا اینا مودلوی مختلفش میشه سعیر آتشی که بالا میره آتشی که گر میگیره همی ادامه پیدا میکنه آتشی که گسترش پیدا میکنه آتشی که ریشه میزنه لضا آتش ناب بدون دود اون آتیشی که شوله آبی داره اصلا دیگه دود نداره جهنم خودش که دیگه بحث کردیم یعنی چی؟ توی ریشه جهنم ریشه ابریه برخی گفتن فارسیه جهنام بوده یعنی چهنام یعنی نام چاهیه که تو اونجا می نزن من با اینکه که ما به قول ایرانی هستیم و می دونید روی زبان شناسی من کار کردم علاقه خیلی زیادیم خودم دارم یعنی اگه برای مطالعه من اینو خیلی بعید میدونم جهنم ریشه ابری داره جهنم دره بنی هنوم هن دره‌ای بود که اونجا آتش درست می‌کردن کودکان خودشونو قربانی میکردن. برای ملخ همین سخنرانی چیز توضیح دادم مفصل اینا که آخر زمان و از و مجوج اونجا گفتن. آرام آرام بچون عرب‌ها گه نداشتن این به چه اینو بدونید اساساً تو بحث قرآنی اینو بدونید قرآن از کلمات رایج استفاده کرده هیچ تعصبی نداره چیزی اسمش مد باشه استفاده کرده خیلی داریم یعنی الان نمیخوام میخوام بردم بس بشم از بحث دستمون میریم متعدد داریم اقوام مختلف بوده قوم اصلا ریشه بعضی از این کلمات که استفاده شده پیگنیسیه کفرامیزه اما خود سعودیه میگه الان که مردم به معنی متدینونه ازش استفاده میکنن بهره برده مثلا آمین ما در ادبیات دینی ازش بهره میبریم اگه کنیم کنین مسیحیان میگن یهودیان میگن آمین این ریشهش رو برید به همون خدای آمون مصر ور از اونجا وارد زبان عبری شد آمد وام گرفته یه چوش من زبان عربی اون شوهر داره استفاده میشه. ریشش چیه یه بط اتد اونا بعلا نتذرون احسن الخالقین اینجایستان اشاره میکنه قرون که این در عرب اونه شوهر استفاده میشه شو. بخاطر اینکه اون بط مالک میتونستن تو فرنگ مرسالارانه عربی هم همین بود شوهر راه مالک اون خانواده و زار زندگی میدونستن در ابری شعال استفاده شده 265 بارم به کار رفته در عهد عطیب که منتا وقتی نگاه میکنی تو ترجمه ها جالب مثلا سی بار بارش شده قبر هم قبر رو گفتن. این به تفکر بازم پیگینیستی مصر باستان برمیگشته نه فقط مصر ترک هایی که در آسیای در سیبری زندگی میکردن هم همین فرهنگو داشتن به دنیا یه دوعت مصری اعتقاد داشتن دنیای زیر زمینه گفتن قبر میکنم یه نفر زیر زمین همونجا یه دنیایی هست یه زندگی هست بعد مثلا موجوداتی که زیر خاک میرن و با اونا مرتبط میرن مثلا ما رو نمیدونم سوزکا و هشرا و اینا رو بوم برمیشن. این کاملا متأثر از اونه در بین ما ایرانی ها رایجتره تا حدی که بسیاری از ادیان و که. از ایران راه پیدا کرد اینا یاد گرفتن هم مفهوم شیطان از ایران رفته تو ادیان ابراهیمی از نظر اینها هم مفهوم آخرت و دنیای دیگر پربیرا هم نیست درسته شیطان همان واژه سیتن و ستون خود ماست هم سیتن فقط یهودی هسته و شه تلفز میکنن خیلی وقت خواهد. ستون، استون، ستنه، همون شده رو دارد. دیو، ده او با بل شد دیابل، اوسه یونانی گرفت شد ابلیس. همون تو هم همون میگن دیابل. دویل، همین رو یک فیشه داریم. هزار هشتصد سال دو هزار سال پیش از مسیح خیلی سه هزار و هشتصد سال سال پیش میترایست ها خورشید پرست بودن اصلا قائل و تقدس خورشید بودن اولا. اینجا بگیم دقیق تره در مورد روز قیامت صحبت کردند آتشگاهی رو در اون توصیف میکنن که انسان های نیک آتش براشون میشه ش... مثل شیر و اصل و انسان‌های پلید اون آتش براشون میشه آهن گداخته یعنی بسته به خودته یا آتشه که تو ازش برمی‌بی. ببین اونجا چرا اینجوریه چون آتش در فرهنگ ما ایرانی ها ذاتاً چیز قدسیت دارد مقدسه آتش عامل عذاب میگه تو همش آتیشه. تو نورش رو تو نارش رو میگیری، تو نورش رو تو, تو حرارتش رو بسته به خوبی و بدید ریشش هم بعید نیست به این قرآن اشاره داره میگه از قال ابراهیم لعبیه آزره ما آزر جان داریم آزر، آگر، آیر، آتر همینه یعنی آتش تو فرنگ ماست تش تس همه از همین ریشه گرفته شده رفته احتمال زنده در آمدن حضرت ابراهیم علیه السلام از آتش این رو بیشتر کرده یا ما در ماجرای سیابش هم می‌بینید برای اینکه بفهمن کی راست میگه دروغ میگه میگن بیا برو تو آتیش اگه راست گویی ترس از این ایاری بوده برای تشخیص حق و باطل یکی سوگند می‌دادن یکی همین سوگند گند یعنی گوگرد بوی گند یعنی بوی گوگرد سوگند یعنی آب گوگرد سو به ترکی یعنی آب گفتن اگه راست میگه بیا آب گوگرد بخور ببینیم سالم میونی یا نه سوگند بخور آتشی همسی تقدسی داشته. خب روح رو میگفتن سه روز کنار جسدش میمونه. و سهرگاهان روز چهارم به پل چینوت میره. پل چینوت دقیقا معادل سراته. پل سرات. و که در کنار قله دماوند اونجا مقدش میدرسته. دادگاهی با حضور ایزدان برگزار میشه سروش و رشن و اشتاد با نظارت ایندرا و میترا اینا قاضیان روز جزا بودن تو نگاه میترایستا و با ترازو کارهای خوب و بد اینها رو اندازه میگرفتن تا معلوم بشه کفه کدوم ترازو بیشتر و اگر خوب بود میرفت به پردیس اگر بد بود میرفت به دوزخ در بین زرتشتی ها که متأخرترن اونا قدیمی ان میترایستا در بین زرتشتی ها این مدونتره روان گناهکار روح گناهکار بعد از رسیدن به سر پر چنوت یا همون سرات تو گام اول در دجمت پندار او بررسی میشه در دوزخت که میشنیم دوزخت گفتار او بررسی میشه و در گام سوم به دجوبرشت میره اونجا کردار او بررسی میشه و نهایتاً وقتی بررسی شد میرسه به دوزنگ دوزخت هم از همین کلمه احتمالاً گرفته شده یعنی جهان زشت که در فارسی معادل شد با آرام آرام با دوزخ خب من همه رو تقریبا برای شما بررسی کردم وقتم نبود بیشتر از این بخوام بگم وارد دیتیل بشم پس وقتی نگاه میکنیم هیچ دینی به اندازه هیچ کتاب اندازه قرآن تذکر راجع به قیامت و آتش جهنم و دوزخ و عذاب قاب الهی نداره برای این پیامبر این دیر منظر خصیصه شه. شما اگر تورات بخونید تقریبا تمام عذاب قاب همین دنیاست خدا میگه اگر آدم نشید من یه کاری میکنم آدم های بد بر شما مسلط شن. دقیق کردید تورات بخونه همش همین قحطی بگیرید وبا بگیرید گرسنه بشید جنگ صورت بگیره تنبیهشون هم میخواد بکنه میگه مردمی می را از یک طرف دیگه دنیا بر سر شما فروت میارم همه چیه همین دنیا قرآن اینطور نیست میفرماد این یه عذاب عادیه عذاب اکبر عذاب اصلی اون بره همینجوره حالا فیلن دستهری شما لطفه فهمیدی پیش قضایی بخورید داشته باشید میگه تو موجه زلغرین هم همین میگه که نه حالا یالا میخوای عذابشون کنی یا نکنی جواب میده چین؟ حالا اینجا ای چی؟ و اصلی. چون اصلا حیات است ولی آخرت خیر و ابقا. عذاب اینجا چیه دیگه طرفو میزنن میکوشش دار میزنن تیربارون میکنن میبرید. اونجا نه اونجا رهایی نداره بلکه قرآن برای اولین خو... بار از خلود در آتش گفت. میگه ده حسن در خود آتش میمونم چطور با اداره الهی سازگاره من گفتم حالا اینجا کوتاه بگم کامل بشه بس شما مثلا که نخ بردارید که پلاستیک بردارید فاز و نول رو به هم وصل کنید هیچ نمیشه چون ذاتن رسانا نیست فازونو اگه شما بزنید فیوز میپره دیگه اینجا هر کار کنید چیش نمیشه رسانه نیست یه سیم نازو که مسی رو بست بکنید داغ میشه قطع میشه اصلا فیوزی که قدیما فیوزهای که سیم بود من یادم برق میرفم ترام ها نمیرسیم برق رفتی یا فیوز بریده میمنم نگاه میکرم سوخته که سیم برمیداشتن میذاشتن رشته سیم بیبستن میذاشتن نبینم الان سیسم شجوری بعد و اندازه ای که ببینید داغ شد قد شد یه دی تو جهنم اینجوریه یه دی کسا آتش باشون میونهی نداره ببریشون وسط آتش بیچیشونه میشه همین هم هستش بهشتیار اون دنیا از لبه جهنم رد میکنن اینکه میگه وارد بر جهنم میشه من خیلی ها متاسفان از عزیزان خطا کردن ورده در زبان عربی به معنی داخل شدن نیست دخلای این داخل شد ورده یعنی لبه یه چیزی بایستی این که میگه همه تون در جهنم میشید ال... آی قرآنه اینجا کلی شبهه شده آقا یعنی چینجا بیت چی میشن نمیدنم فلان چی میشن لبه جهنم ردتون میکنن رده اون میکنن چرا اون آتیشش لحی بشمار نمیگیره اگر خوب باشیم اونو با آتیش تزاد دارد مثلا میونه ای ندارد مثلا پلاستیکه یه دون سیم میشن قطع شهست سال پدر سختهی کردن تو دنیا قطع شهست سال همون داغ میشن بعدش داغ شدن چی میشه؟ قطع میشه خوش شما به بابرو بشه میران بشت بعضی ها الیمنت هم بخاری برقی هم بزنیش چیه؟ میسوزه و میسوزونه حالم میکنه برم اعرض کردم بهتره بگیم جهن... وقودها الناس و هجاره خدا می اون دنیا آتیش جهنم شمره یزیده با اون بقیه رو می سوزونیم خوده لا مستبش المنته وقودها الناس و هجاره زغال سنگم هم آدمم می نزیم. به میزانی که شمری میسوزی به میزانی که یزیدی می سزی. چند دست از شمر داری؟ خود ببینیم شمر بودن یعنی چی؟ چند دست از یزید داریم؟ ببینیم یزید بودن یعنی چی؟ چند دست ایگره ایکس و ایگره و ایگره و ایکس و از اینا داریم؟ بله. فلانی. فلانین چی بود؟ انقدر وعده عذاب جهنم برش داده شده. بعضی ها رو سریح در قرآن گفته شده، بعضی‌ها به اشاره گفته شده و تیکن رخته خدا. بعضی‌ها رو در روایات ما خوندیم. میگه چیه؟ میگه خب این مثلا قاسب یه حقی بود من چی که حقی رو قاسب قسم کردیم انشاءالله اون درصد ما در چیه؟ تو بخش قدیر چیزی ما دای ندوه این مثلا صحبت صحبت قسمه آقایی که صلاحیت و لیاقت برای مسئولیتی نداری بله علی العظیم برادرانه دارم بهت میگم خیلی احمقی. خیلی خیلی احمق تو خودتو داری با اون با آتش نزدیک میکنی چون تو هم لایق نیستی تو باید بدوی بری همین امروز بکنی یه نفر تو بهتره خودنش بری بردش بری مجلس مای چیزایی دیدیم به امیر المومنین که هر نماز به مخیله اون نمی گنجید الان دوباره شورای شهر شورای میشه. گوشهاشون زد بیرون دوباره تلفنشون شروع شده پیامهاشون شروع شده قدرت امید نداره اگه لایقی فخوزها به قوه بگیر محکم بایستا به جنگ دراش میدونی بهتر از تو نیست اما اگر شما میدونی یک نفر تو بهتر سر در میاره تو کار اجرا از تو قوی تره بدون تخصص در کار اجرایی میخوای وارد چیزی بشی؟ اگه ما سر در میاری من مدیریت کردم بلدم می هم خودتون نا... اصلا بیل کن بقیه هم خودتون آبود میکنی دیگه <تصفيق> چی بگم بقیهش من در تو دارم عرف میزنم نکنید اگه مبنات مذهب ما فرمان ریاست ارس برنید که و دنبال یه نفر بودی به زور همین چند وقت شون جلسه بود جالب بودی گوش کنید خیلی عجیبه قدیره باید بفهمیم یا نه؟ فقط بحث اعتقادی قدیر محقق شد بوده است یا نبوده است منظورش چی بوده اصلش تو زندگی ما چیه کسایی که دنبال ریاست طلبی هستن اون دنیا دست بسته محشور میشن دور گردناشون عجیب اینها اینا که عهدی با مردم میبندن بدن میزنن زیرش بدونن آینه نماینده ای که گفتی چفاف قبول داریم ولن یا اینشالله نیست نیستی خورده دارید بازی در میارید روایت داریم عهد شکنان در جای جهنم یک جایی هست پر از دست های قد شده است میگن اینا چیه؟ میگن اینا عهد شکنان اینا به اهد شکنان یه یعنی جهنم خودش قصه داره آقای نه ترسونید مردم چی نه ترسونم هست دیگه بیم سر اینجایی جلو یه دره یه نه ترسونید بزن برن تا دره عجب احمقی. جای جلسه ای بودیم صحبت یه عزیزی شد از مسئولین سابق بخش حالا تو سپا اوظاهرن اینطور که میگفتن گفتفتن اینا کلی نقشه کشیده بودن ما چ جووری به این بگیم که ناراحت شه اینجا مثلا نقشه میکشن بر توی معرفه دیگه چون وله کنه لامستر چسبیده شروع میکن رایزنی کردن نه من نه تکون بخورم با همین میخواد مشهور شد دیگه. بعد. یفتیم چی بگیم چینه که معمولاً یه جای دیگه بر طرف باید میتراشن و برش جلبه میدن آقا اینجا الان به شما لازمه نیازه تو نری کار پنچره های حرفا یه شروع کردیم حرف زدن رو که مثلا الان دیگه یه جای دیگه اخیرن الان حضرت و آقا فهموده اینجا عرصه مهمیه مثلا نبینم چیه شما اصلا صحبت های در انقلاب گوش کنید همه جا مهمه <تصفيق> والا صدوسی ما مهم می فضا می من رهبرم شدم می رئیس فضا مجازی می اونجا مهمه صنعت اقتصاد نظامی همه چی ما فرهنگ همه چی مهمه کدوم مهم نیست اینو شما نمیدونید من میدونم که شهر اداره به اداره چرخیدم هر جا میرم مثلا اینا روایاتش احادیثش صحبت‌های امام ما در مورد اونجا مثلا میرید اداره اصلا منابع طبیعی اینو هم کلی رو باید آقایه در مورد درخت و نمیدونم شو جکو جونه چیزی چیز رو مثلا حفظ بشه از... اشکال هم درست کل زیست همینه باید متعادل باشه راجب همین کلی ما هر دادم براتون یا آقا اصلا که اشکالاتی دینداری ما اینی که متعادل نیست فقط سراغ 200 سره باید میریم میگه ما داشتیم آماده میکرم شرایط برای این بند خدا میگه بو برد میگه خدا شاهده. این سررسید رسیدش از رومیز بلند سری. خب من برم همین ما گفتیم خیلی لخت گفت قرار نبود این جدیق نیم ساعتی بعد ما مقدمات فراهم کردیم گفت آقا رست رکش بن بگید. میگفتیم حالا به نظر ما آره بریم مثلا اینجا گفت سررسیده رسیدشو برداشت گفت فست برای بلچوا فراتن اوتگرافور اینه دیگه شاید کلاتوزن که حالا یا اسکام مترو شما میگه شاید کلات گریه میکرده قرآن آورده رو در اتاق برای باز کردیم چه خبر گفتین چی منو میخواید بذارید فرمان دفران میخواید منو بدبختم کنید نامد منو تو رفیقیم آدم تو رفاقت این که سر رفیقش میاره میخوای منو معرض سوال و مسئولیت قرار بدی مگه من چه ایزامه تری بهتون فروخته بودم نامردا گریه قرآن وسط ببین دو تا دوتا دو اتمسفر اینجوری نگاه کن اسم بیمیل میشی حالت به هم میخوره انگا ببخش کثافت گذاشتن جلوت من خودم قهوه خور نیستم کلن یعنی جنبش هم ندارم مگه یه خورده به من یه قهوه دیم. سه روز خوابم نمیبره اصلا یک جایی ما رفته بودیم برگاش کفتش که قهوه میخورید گفتم که نه از شما در نکنم همه چی میرزه رو هم سیستم؟ یعنی از این کافی میکس ما نمیتونیم بخوریم بابر کنم پودرهای میجید آماده است. اینا که قهوه هم. بعد گفتم گو آقا این ها گفتم یعنی چی مزه امشب زهر رو مز زقم چه جوری می خورید شما اینا رو بعد شوخی هم کردم گفت میخوای خودتون بعد جهنم آماده کنید و از الان زقمو تست میکنید گفت آفر گفت نه این ویجاست میدونی چقدر پولش گفتم والله مزه چی داره توش گفت نه از تایلند اومده گفتم بیاد از تایلند فرق داره گفت بابا مرد حسابی تو این کاره نیستی نه نیستم حالا بگو ببینیم چته گفت اینا رو میدن دونای قهوه رو فیل میخوره خب بعد از اون میده بیرون میرن این تا فیلر ور میدارن میبرن صاف میکنن اینو رو دوناش در میارن اسید مهده فیل روی این یه اسفری میزارنه گفتن باشه بار گمشه حالم به نامرد این رو میخواستی بخورده مامدی نامرد اینه ناراحتم هم میشی او مشتری خودشو داره مشتری خودشو داره یا یه بند خدایی بود وزارت ای بود بعد ما تو واسه دنیایی داریم رفت بود یکی از این کشور رو تازه رفت بود مسئولیت گرفته بود اونجا که رفتود بهش هدیه بهشون داده بودن یه شیشه پرقش داده بودن بعد اینم آورده بود ارخته بود توی چای داشویی. بله اکسشی شهر گرفته برای من فرستاده بود بعد من چند وقت بعد من هم, بعد من هم گفتش که این اکثر بر تو فرستادن بر کلی از مثلا رفقه ها و مثلا گفت یکی دیده بودت خاک عالم بر سرت میدونی چی بود از شویی <تصفيق> <تصفيق> آره دو تا دنیای مختلفه تو بخواید تو کدوم اتمسفر نفس بکشی خودتو نابود بکنی فرار باید بکرد پس من شما امروز باید ببینیم که چه افرادی رو ازشون بیزاریم تو اتو الله و الیکم منهم نه خود پدر سختشون و من اشیائهم و اتبائهم و اولیائهم من بیزارم از خودشونو کسایی که اینا تبعیت میکنن کسایی که اینا رو دوست دارن بره اعلام برائت میکنم بوی اینا رو نگیرم باری که الله عجب حرفه قشنگ قشنگی خب بیان بینو رفقه اونا کی هن؟ بینو رو دو همین اونا دوستشون داری دیگه اگر رفتم نزدیک شدم کی میشم؟ یکم اونا میشم اونا چی, چی کار کرده بودن؟ حق رو ناحق کرده بودن خون خونریزی درست کرده بودن آدم کشی درست کرده بودن چی بود؟ دلیلش چی بود؟ ظلم کرده. چیکار کرده؟ بالاخره کاری کرده که میگه من بدم میذ از این. فرعون دقیقاً ارادش چی بوده؟ ها؟ نمرد ارادش چی بوده؟ اینا که ویژن ابلیس ارادش چیه؟ ابلیس ارادش چیه؟ مردمو فریب میده. ما فریب نمیدیم برای منافع خودمون؟ ما چیزی رو زیباتر جلوه نمیدیم؟ ما یه کالایی میخوایم بفروشیم برای کسی. قورباغه رو جو فلیکس با چند بار از این کار کردیم؟ خب همون میزان داریم دیگه چند درصد از اون آدمی قاسب حق داری؟ اون هیزام جهنمه میزان یه درصد داریم نیم درصد داریم نیم درصد شعلش رو میگیریم اثرش میگیریم با فاصله قرارمون میدن یکی میره اونو بغلش میکنه تو جهنم یکی برای همینه شیطون خودش طبقه چهارم می سوزه و دو سه داریم اونا دیگه کهی هم احتمالا خدا یه بخواد حال شیطون بیشی تر بگیریم می فرسته اونا ببینی شیطون از اون می آره می دیگه اون دنیا میگه من خودم می از خدا نه اخاف از اسکی اربوالامین میگه شما خیلی احمق بودید گردنم نمیگیره رو اصلا میگه من پیغمبر به شما وعده داد منم وعده کیو دستشو گرفتم به زور بردم گفتمتون حرف مفت میزنید خدا اینو رو در حق من ظلم میکنه همونجا خب جهنمی میگن کار این بود میگه کجا ایستاد 224 هزار تا پیغمبر گفت این طرفی برو فطرتت میگفت این بر عقلت میگفت این بر همه چی من وایسادم به بودم بیا اینو اومد این طرف راسل. خودمو اصلا گذاشتم رو شقات بسم الله بودو. هم از همین روز که خداوند فرموده است این پیامبر بیم دهنده ای از بیم دهندگان فیشین اسور نج 56 و, و فرمود انما انت منذرون کل قوم هات. پیش از او این پیامبر و پس از او تا قیامت و نیز در هر دوره زمانی و هیچ کس مورد پیروی و اطاعت قرار نگرفته است تا آنکه که خداوند وارث زمین و آنان که بر آن قرار دارند گردد فوزهین میگه از امام صادق درباره مفهوم لکل قومنهاد پرسید امیشون فرمود یعنی هر امام هدایتگر مردمان دوره که در آن است امامنهادن لکل قومن فی زمانهم امام زمانهم همین الان امام هادی من شما باهم و به اندازه یک امام حاضر بر من شما داره اطمام وجهت خودمونم می‌دونیم دونیم. جاهایی که تک و تناشیم. جایی که مختار بودیم تو انتخاب چیزی. عشنگ می‌دونیم خودم بر خودم فیلم بازی نکن حالا الام اومین نکنه نداره. اما کلا سر خود نستن. نامرد ناشت. مرد ناشت. امام باقی فهم بودن. امام همان هادی و راهنمای مردم در زمان باز از امام باقی روایته در بورد این نما انت منظرون وله کل قوم نهاد که پیامبر فرمود من آن بیمدهندم و در هر دورانی امامی از ما در بیان مردم حضور دارد در هر دورانی باید حضور داشته باشد که آنان را به سوی آنچه که پیامبر خدا آورده راه نمایی می کند و حادیان بعد از پیامبر امام باقی می فرمود اولاً علیست سپس جانشین او همجا اسم می بره دیگه خب؟ قسم به خدا که امر هدایت از میان ما بیرون نرفته و تا روز قیامت در میان ما خواهد بود. رسول خدا بیمدهنده و علی کسی است که اهل هدایت به وی اقتدا میکنند. دوباره ما باقر علیه السلام رسول خدا انزاردهنده است و در هر زمانی هدایتگری از ما هست که با آنچه پیامبر آورده هدایت میکند. بعد از ایشان علی هدایتگر امت است و بعد از او جانشینان و او یکی پس از دیگری این مسئولیت را عهده خواهند گرفت. خیلی خیلی من چندش جدا کردم. جالبه امام باقر باز می‌فرماند بله اگر می از امام حسن امام باقر از امام حسن نقل میکنه. که امام حسن رو باید فرمود که روزی پنج‌شنبه بر برای ما خطبه بخوان. فرمود پروردگار و متعال متع فرموده است اما ما کل انظرون للكل قومهات که من کننده هستم و علی هادی است عرض کردم یا رسول الله شما فرمودید زمین از حجت خدا خالی نمی‌شود فرمود بله دل... کودکی بوده امام حسن داشته می‌پرسید فرمود بلی علی بعد از من امام و حجت مردم است و بعد از وی امام و حجت تو هستی و پس از تو برادرت حسین پروردگار لطیف و خبیر به من خبر داد که از نسل حسین پسری به دنیا میآید علی نامیده می شود که هم نام جدش علی است وقتی حسین دعوت حق را لبیک گوید امامت به پسرش که علی نام دارد می رسد و وی امام و حجت بعد از حسین است. آنگاه خداوند از نسل علی پسری برون می آورد که هم نام من است و شبیه ترین مردمان به من است. علم او علم من و حکم او حکم من است و او پس از پدرش امام حجت است. خداوند از نسل من فرزندی به وجود می آورد که جعفر نام دارد و در گفتار و کردار صادق ترین مردمان است. اینجا رو امام داری او پس از پدرش امام حجت است. خداوند متعال از جعفر فرزندی به وجود می آورد که موسا نامیده می شود که هم نام موسبن امران است. چرا؟ اینقدر راحت چرا؟ باید احمه اسمی بچهشون ایسا نباشه موسا باشه اماما دیگه. چونتا ابرا... ابراهیم نداریم مثلا نوح نداریم چهار تا امامون علی چهار تا محمد یه هشت یه نفر محمد علی بذار اسم از محسومی نست گوشتها بره بعد یه موسی داریم چرا؟ نه حساب کتاب داره اسامی اهل بیج حساب کتاب دارد این اسامی بسیار بیجه است در علم ابجد بسیار بیجه است <Kne merchant> <مدید>. <DKK> یه مثال میزنم مثلا وقتی این حروف با هم ساده بشن بر مبنای فاطمه رو چه قرار بدیم؟ فاطمه این حروف ساده بشن فایش با فای جعفر میده میمش با میمه موسا میره الفش با الف مقصوره موسا میره چون تلفظ مهمه این که شما چه شکلی می نویسید اصلا مهم نیست شما سه و می خواهی اس به نویس سین به نویس هرچیست داری چی میگید داری میگه سا مثلا موسا حتی قدیم ها اینجا آم میذاشتن از فاطمه چی میمونه؟ میمش که رفت تاها تا ها آل تاها طه ابجد شنده ه 5 ت 9 ج 14 فاطمه ابجد شنده 135 ندید بگید سوره طه تاها چند تا آیه بعد داشته باشه 135 در سوره طه ماجرای چی اومده قصب خلافت هارون چرا نام موسا باشد؟ ازاره. ما چیزی نفهمیدیم فقط همین رو چون میگم نمازوزاتون روی این حروف مقطعه چرا میگم الفلامیم و یه رمزدار و اهلویتش حرف میزن تاها و ما انزلنا لیکل قرآن شاهگار قرآن عمدیدون میگم کنید تاها یعنی کی بحث کردن بعض میگن صفت پیامبر یکی از اسمار پیامبر. اونجور گفت آره دید تاها چیه و ما انزلنا ما قرآن نازل نکردیم بر تو لتشقا که خودت انقدر ازیت کنی چرا من خودتو به زحمت انداختی من خدا من آورند من گوینده این کتاب رازی نیستم انقدر خودتو به زحمت بنوزی بس تاها ای پیامبر ما این قرآن رو بر تو نازل نکردیم خودتو به زحمت بنوزیم تو زبان عربی سیغه مفرد مذکر مخاطب میشه تفعل دقیقا سیغه مفرد غایب مؤنس هم میشه چی؟ تفعل وقتی شما میگه تذهبو یعنی تو مرد میروی همزمان آن زن میرود تاها قاتمه و ما انزلنا کل القرآن ما این قرآن رو بر توی پیامبر نازل نکردیم لتش آه که او خودش اینجوری به زحمت بندازه بفرماد هفتاد بطن داره هر بطن نمیدونمش یه وقت حداقل داره میگه یبنه تاها به این فکر بکن یعنی تاهای کسی دیگه پسر تاها یه مهمه این اسامی مهمه من یک بودشون برون مثال بزنیم چش نام مادر موسی بن جعفر حمیده بربریه است حمیده یعنی پسندیده هیچ کس اسم اصلیشون رو نمیدونه اسامی بود رو کنیزها گذاشته شده صفت نمیدونه اما ایشون یک پسرش میشه موسی بن جعفر کازه. یک پسر دیگه اسمش اسحاقه اون رو هم باز از پایین بران بنی اسرائیل اس گذاشته شده ایشون اهل اندلسه و از اندلس آورده شدن اینها به مغرب مراکش به مراکش در یک نقل داریم که اسم پدرشون ساعده می تواند نمیگم قطعیت نداره می توانسته ایشون والده یعنی امام کاظم یهودی بوده باشن چه شیعه شدن جان همیشونه در خرامه استان فاز به در خرامه استان فاز نه اینکه حالا مثلا از این اسامی نداشتیم برای اهل برای امام بر دیگه شون. چرا هست اما خواهیم بگم این همسرشون اینطور یعنی خب میدونید در وجود نازنین حضرت ولی از همه خیلی از این قومیت ها رو خود از طریق مادر دخالت داده مثلا اهل آفریقا مادر امام جواد که اصلا سبزه بوده برای امام جواد پوستشون رنگ پوستشون به مادرشون رفته بود سبزه بود امام جواد از آندلوس، از آسیای سغیر ترکیه امروز حضرت نرجس سلام الله علیه با. از ایران شهربانو، از اروپا آندلوس بگیرید تا بینید جناب. در وجود نازنگیشون انگار او منجی همه است نجات مهم نیستانه برای من یکی است مهم نیست خب، ولی انشالله در این طور بشه اما بر ای هم که حتی اینا محمد دهنه همون هم بسته میشه بعد تازه شما همین نفر اول مینی باز نمیدون اجدادشون که مثلا حضرت ابراهیم علیه سلام با حاجر که ازدواج کرد حاجر مصریه به حضرت اسمایل دیگه, دیگه نمیدونیم با چی کسی ازدواج کرد مخصوصا که متاسفانه اینا نام ها رو چند زنها اهمیتی نداشتن عربا نقل نمی کردن. مخصوصا اگه طرف کنیز بود اصلا هیچی خیلی وقتا اسم کنیز گفتن ام ولد مادر بچه ام ولد از صلب موسا فرزندی پای به عرصه حیات می که علی نامیده می شود. او معدن دانش و مخزن حکمت است به از. بعد از پدرش امام حجت است خداوند از صلب علی مولود به دنیا می آورد که محمد نامیده می شود و بی از پدرش امام حجت است از نسل محمد پسری به دنیا می آید که او را علی می گویند و او پس از پدرش امام حجت است خداوند از صلب علی پسری به وجود می آورد که حسن نام دارد او پس از پدرش امام حجت است خداوند از صلب حسن حجت قائم امام را به وجود می آورند که نجات دهنده دوستان خداست او به مهاق یا محاق غیبت می افتد به طوری که دیده نمی شود و از همین روی گروهی از صف او جدا می شود و گروهی نیز بر دین او ثابت قدم می و میگویند اگر راست میگویی این وعده خدا کی خواهد بود و یقولون متى هذال بعد ان کنتم صادقین یونس میخواهید می خواهید شنید ای کسانی که محکم میستید بر تو، اصل میرسه که ادهی میگن کجاست پس چی شد چرا نایمد آقاتون م... و یقولون میگن نمیگه گفتند اینا مهم قرآنه فیلم مزاره داره استفاده میکنه و یقولون میگن متا هذا الوعد کوشی وعده این کنتم صادقین اگه خالی بند نیستید اگه راست گویید اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد خداوند او را آن روز را آنقدر طولانی می کند که ایشان قیام می کند و زمین را بعد از آن که پر از ظلم و بیداد شده باشد یعنی این حس ظلم و بیداد تمام مردم دنیا خواهند چشید سرشار از ادالت و انصاف می کند بنابراین زمین از وجود شما خالی نخواهد بود نه پیامبر بردار می فهمید. به امام حسن و خداوند دانش و درک مرا به شما عطا خواهد فرمود من از خداوند درخواست کردم که دانش و فقاهت را در نسل من و نسل نسل من و ذریه من و ذریه ذریه من قرار دهد در هر زمانی که امامی هست که حضور دارد حالا ممکن است ظهور نداشته باشد در وقت این مبناخ حاضر بودنش امام صادق می مقصود از منظر رسول خدا و منظور از هاد علی است و, و امامان بعد ازشان این به آنان که وجود امام را در هر دوره و هر زمانی انکار می کنند. پس باید باشد و باید زنده باشد نه مثل اصحاب کفی کسی تو خواب باشه نه باید زنده باشد و اثر دارد و کار می کند که ما ها خبر نداریم نمیبینیم مثل کی خزر موسی اگر مأمور نشده بود کنار اون نبود میدید پیغمبر اول از نه خیر او هم خبر نداشت هیته کاری خضر علیه السلام چنان محرمانگی دارد هیچ کس خبرند مأمور بره یه کشتی سروح کنه میخواد اون مؤمنو نجات بده دارن اون طرف کشتی های سالا میبرن بر جنگ اومدن دن کشتی این سراخه برشک معمور میشه یک جای کار دیگه کنه، دیوار خرابی رو درست کنه. باید کسی باشد این کارا کارای تازه چی پیاها وقت دارم میگم این وقت نکن چون ارتکرم دروت هم داریم موسا صبور نبود وگه نه چیزای عجیب قریب بودتری قریب خواهید قرار بود ببینه و بدان که هیچگاه زمین از حجت خدا توهی نخواهد شد چنان که امیر فرموده است زمین از امامی که حجت, را در حجت خدا را در زمین برپا دارد خالی نخواهد بود حال این حجت یا ظاهر و مشهور است مشهور است امام صادق امام علی میشنسن همه امامش. امام رافزی ها کیه اگه میخوام فشم بدن میتونستن گفتن الان بزرگ ر... این شعیان فلانیه هر چند ما شیعیانو فرق میدونستن الان نگاه خیلی از این سلفی ها به ما مثل بهایاست دقیقاً همون نگاهی که ما به بهایا درمونه داریم سلفی یا اهل سنت ناما حال این حجت یا ظاهر و مشهور است یا تر ترسان خائف یعنی نک ترسو یعنی ترس از کشته شدن ایشون وجود دارد و مجال نیافته فرصت نشده زور بزرگ چرا که اگر چنین نباشد حجت های خدا و دلایل روشن او باطل خواهد شد خود شما میتونید بزن زیر میز یا نشد که آقا ما فقاله در ادامه و الملع امامه پس گفت در حالی که مردم روبرش بودن ملع از ملام همینه یعنی پر جمعیت پر بود ملا یعنی بزرگان یک قوم با یک کلمه چند تا مفهوم میگه قرآن فرعون گفت بکی به ملع قومهی بزرگان قومشو جمع کرد باشون صحبت کرد یه فکر برای مصابیت بکنیم می هم جمعیت پر بود همون بزرگان جلو بودن همونه که بدن زدن زیر میز اونا همه چش تو چش بودن امامهو من کنتو مولا فعلی مولا اللهم وال من بالا وعاد من و ونصر من و وخذ من خذله دوست باش با هر کی رو دوست داره دشمن باش و هرکی با او دشمنی میکنه یاری کن هرکی او رو یاری میکنه به خزلان بکش به شکست بکش نابودش کن هر کی او رو قصد نابودی و شکست او رو داره در کنار قدیر آبگیر قدیر محل بود که مردم ها میستدن کاروان ها میرفتن اینجایی بعد آب باشی تا بتونن استرات کنن دیگه. در سرزمین جخفه بیش از 120 نفر از صحابه و هشتاد نفر از تابعین این ماجرات رو نبله کرد هیچی که رو میتونمون هیچ کس اومدن بعدن این قول تاوردن نه مولا یعنی چی مثلا دوست و معنی نیست و نمیدن فلان دعواج شده بوده امیران با صحابه همه رو جمع کرده حالا اماند حسلالا اونا رو شنیدید دیگه سآل واقعا اینه یعنی که پیانبر استغفرالله متوجه نبود که مردم واقعا تسریح، تسریحش کردن و یا تسریحش کردن مگه اساسا امامت منطقی تر نگاه کنم مگه اساسا امامت رو مردم انتخاب کردن بیم همین الان پس بیمی کار کنیم دیگه چه کاریه همین الان همه مسلمان جمع بشیم یه ملد نفر صندوق رعی بذاریم اون زمان رو انتخاب کنیم به دنها به برداری سنی ها بگید بگید آقا بیاید ره کنیم که امان بشه همون زمان بشه هم مهدی که همونتظرشن دیگه چی میگن؟ آه خدا انتخاب چه تو آخری خدا انتخاب میکنه اولی شما عجب <تصفيق> به قرآن گیری کرد قرآن 124 بقره به حضرت ابراهیم میگه تو امام نی جایل رو کل ناس اماما من تو رو امام قرار دادم نه مردم قرار داد مردم گوشت جنگیدن که تو آتیش میخواستن به نزن این هم عذیتش کردن پیغمبر رو شما تهین میکن که ما مطهین کنید کجا زم شدید پیغمبر رو تعیین کردید رای بذاریم صندوق رای بذاریم این پیغمبر رو با حالی میذاریم مشروب بخوریم و بذاریم این رای بزنیم. رو جایز کردیم بذاریم این رای بذاریم این بوده کل اهل ثقیفه هشتاد نفر جمع شده فقط دوازده نفرشون رعی دادن کل مسلمین بودن کدوم شعره های شورا میکنن آدم میگه تو بعدیش هم کلن 6 نفر جمع شدن اون زمانی که دیگه مرز اسلام رسیده پاکستان ازی بر رسیده رو گرفته 6 نفر جمع شدن خلیفه تنگ کنن عجب پس شورایی هم نیست بالله خدا به کلومن نمیدیم که شورا شورا گلن دوازدن نفر تو سقیبه رای دادن تو شورای 6 نفر هم شیش نفر رای دادن اسمش روشه تو جنگ تبوک فقط سی هزار مسلمان شرکت کردن سی هزار مرد مسلمان فقط از جنگ تبوک شرکت کردن همه اینا هم رفته بودن دیگه اینا تو جنگ بودن این کار کردن این آقای برگشتن هم تو کار انجام شده ق مگه نبوت برائده اسلامی اومد شمشیر کوف وسط شهر گفت من قبول نمیکنم اون چیزی که ما پیش قا قنبر چند رو دیم علی بود فلان بود جنگ شد دعوا شد گرفتن بردن یه در کشتن رو آویزون کردن سده بنواده قبول نمیکنم میگه من نمیگم علی چرا رو این ریختن همونجوری با بارنکار آورده بودنش جلسه مریض بود و منو بردین جلسه سقیفه گفت ریختن اونجا دنداش شکست افتادن روش درندش دیگه چند وقت بعد جنازش بیرون مدینه پیداش شد گردنش رو زده بودن. گفتن جن کشت است کلا هر چیزی اینا نمیتونن نمیتوند. گردن جن. یهودی دو دمال پیغمبر بودن. پیداش کنن. ترورش کنن. رسیدن بالا سر پیامبر. شیما دختر حلیمه دید. جیغ کشید. اومدن نجاتش دادن. گفتن دو تا فرشته یا جن بودن اومد بودن قلب پیامبر رو سینه رو مش گفتن درمی آوردن چس شوم می دوباره میذاشتن تو دوباره تر تر می‌میز می کردن می‌ذاشتن می‌رافتن حدیث شق و صدر برای ماله بکشن هر جن و حضور خودش رو خاصم ماله بکشن اینا گفتن گردن جن جن ثقلات می میخواد بکنه تا چرت ایده بهتون میده کار فیزیکی یعنی گردن زده این جنه یا بابا امید جن خود شما بودید منطق اصحاب رده چی بودن رده از مسلمان ها از غذا امیران قبول بگید نکرنه گفتن چرا این جنگیدن باشونه قتله همشون کردن با مالک شبن نوویری کرد خالد ابن ولید فرمانده سپاه خلیفه اول خیلی همین سلافی آشقش خیلی چون دستای امیرانمان کسی که بستیم بود اینا که صحابه رو اینا که قبر صحابه رو اجربنه اداره در آوردن بردن, بردن مرموز کجا چیکار کردن با خالد کاری نداره خیلی جالب اصلا مالکت به معیره رو کشت مسلمانو سرش رو سه تا سنگ گذاشت تا تزنگ گذاشتیم و, و, تزن و کله مالک رو گذاشتیم درف دیگ گذاشت روش غذا درست رو کرد همون شب با زنش هم زنا کرد الان موندن زنا هر چیجره ماله بکشن زناکار میگن عدالت صحابه این هم میره بهشت این هم میره بهشت ببخش من این دین رو نمیفهمم من نمی فهمم همین بلار سر خودتون می آوردن به اون دین میموندید. موندید همکار با نبامیس خودتون می کردن تو اون دین میموندید. در جنگ ذات اون هزار تا چشتر بود دوستش دارن این خودشان. هم بهت گفتم چقدر از چقدر از هر کسی داری پیش همونم هم شروع شد. تو تردید نکنید. نیگه شون بود الان جلو هرم ازت راقایی وایستداد میگفت دیدید به همومویین رسید فیلان. اونو میشنسیدش هستن شما. اون یارو رو. نه سلفی معروف سلیبریتی هاشونه. فیلمش هست با افتخار داره میگه همجنسوازه. یارو هستم چی میگه چون. تا تو شنو برید جای جالبی میرسید حالا خیلی هم نرید بگذارین جای جالب تو خیلی خوبی نیست نمی‌رسید ابو سفیان قاتی کرد وقتی از نجران برگشت گفت ای این کی گذاشتید میشه یه نفر رو از بنی تیم بیارید بذارید تیره از این بدتر نبود در قرهش آبرومارو بردید پوشه عربی نگاه کرد داشت به جنون چی میش؟ شلون قش کردی؟ با اونم چیزی میتونسن بگن. بزرگ بنی امیه یکس. شر میشه، جنگ میشه. خیانت بنی هاشم رو نذرت مال بکشن براتون. بنی هاشم بعد پشتام ایرانو میخاله که حضرت فرمود گفت من که جای این عمو عباس، ابو عباس گفتار درمانی میکرد فقط. اهل گفتار درمانی بود. با همه خوب بود. جا این عمو این داداش عقیل آن عمو حمزه و اون برادر جعفر بودن اینا نمیتونن اقا منو بخورن. من رفتم بنی هاشم سر خط می کردم یادم اصلا چرا داشتم با ابو عاصم فیلم چیدم گفتم بیا اینجوری چی میگه حرفایی میزنی حرفا خطرناک یا و نه همینه یعنی چی بنت بودی چقدر جنگی از مسای نجران گفتم جزیه بگیره گفتم همش مال خودت جدان؟ آره من خوبیه خوب که فکر میکنم بنی تیمم تیره خوبیه در قرهش یه دوتا دوستام شما پهلوان داشتید مثلا چرا فکر میکنید الان زمان ما هست اون موقع نبوده نه همین من همین واسه سوال دارم چرا اینقدر تغییر طبیعی میبینید فکر میکنید مثلا عصر فرشته ها بوده فرشته ها میان اون زمین یکی بیل میزده یکی آب میداده یکی فر این خوزه اولات در کجا تو دو مخهتون اومده همین انسانه همین انسانه سوختگیه که الان از اون موقعم بوده همین ادم ها. همه ها فجور ها و تقوا ها در درونت داری فلهمه ها فجوره ها و تقوه ها او بچه کچیک چنگ میزنه و شکولاته رو برمیداره این چالیش نیستش فجورش بر تقوهش غلبه داره چی بزرگتر میشه تقوا میاد میاد بازدارندگی زشت جامعه فلان فلان فلان اینا رو به خدا فروید هم گفته وقتی نهاد و خود, و خود اینا رو توضیح میده چی میگه میگه نهادون اون کرکالی برین شماست خزندتونی که فقط میخواد ادامه حیات بده یا بزرگت همیشید زشته این زشته اینا تضادهاشون هم با ما تضاد این سگانه شخصیت رو میسازه دیگه یه از هر کدوم چه دوزی واد داشته باشه اریکسون بعد این رو توی هش فاز میبره هشت لایه دسته بندی میکنه به ما نداره نمیخوام بارده بسیاره بعد اون دیگه فرماشه پیامبر فقط همین دو جمله نیست من کنت مولا علی و مولا فاز علی و مولا این فقط نیستش که تا خود ظهور فرمود تو اون خطبه 11 بخش داره خطبه فدک خطبه قدیر بخش اول هم دو ثنای الهی بخش دوم فرمان الهی برای مطلبی مهم بخش سوم اعلام رسمی بلایت و امامت دوازده امام اینا رو چی میگیید اومد پیامبر فرمود که علی دوست داشته باشید به اونا دوازدهمین پسرش هم باید دوستش داشته ببین بابا من نمیدونم کی اون به دنیا نمیاد 2300 سال بعد من میخواد دنیا چی رو دوست داشته باشم اسنا عشر خلیفتهن دوازده خلیفه اصلا حدیث از خلیفه اسنا عشر تو مستند ترین ببین مستند تاکید میکنه مستند ترین منو اهل سنت قطعیه دوازده خلیفه الان موندن با گیگی شده ما دوازده تا رو جورد جو جو جو جو کنیم همین الان بسیار خلافه رو بشماریم یک دو سه چار خلافه راشدیم هنچ کی؟ امام حسن میگن میان هم هست چیشم؟ معاویه هفتم؟ یزید؟ یزید آورد قاطعینا؟ گیر نکردی؟ پر چی پکر به رزی... یزید؟ یزید رضی الله عنه. کل سیستمشون میر بسم الله بعدی بشمور یا اول فرض 50 خلیفه بودن من چه جور بگم تا اومدن ماله بکشن من خب تا بودن بعد ببخشید تو ادامه روایت میفهمد الی یوم القیامه تا روز قیامت 12 تا هستن الکو خلیفه اصلا که دلایلی که حی و حاضر بودن و زنده بودن امام زمان اثبات میشه اما شیعه ببخشید. فیکس قشنگ دوازدت ها رو داره ها. درست دقیق به اسم و کنیو و پدر و مادر میشتوسه. این کجا دلت میخواد بذاری؟ در برخی از روایات میشه؟ اصلا سوال دیگه برای چه همه خلف بعد باید باشن؟ از خودتون نپرد. میدونی که کلا خلیف ها همه از چی از قریش این ترکیه ها رفتن ابو حنیفره برای چی انتخاب کردن برای آنکه ابو حنیفه تنها کسی بود که حرف شاز زد گفت خلیفه میتواند غیر قریشی باشد عثمانی ها میگن خلافت عثمانی میگفتن ما ادامه هم جانشین پیان بریم برای انکه بتونن بخشا مال بکشن همشون رفتن هنفی شدن ترک ها همشون حنفیان هن تو کل دنیا شافعی نداری حالا شاذ و نداری گوشه ای باشه هیچ از ترکیه تا چین همه حنفیان هن. همین که ایرانیا ها، ترکاشون شیعا و قبل از تشیع شافعی بودن نشون میده که اینا از اون ترکا نیستن اینا آذریان اینا زبانشان ترکی شده به مرور زمان در مجاورت ترک ها قرار گرفتن از وگرنه کدوم تبریزه به چش درشت و اینا معروف والله ژن ترکی ترکی مغولی یک شاخصه های دارد دیگه سعده ها دلیل هست می گفتن حتما باید از قرش باشه خلیفه اگه دقت بکنید همینه بین بنی هاشم و بنی امیه چی شده رفته آمده اون دوتای اولی هم تا تیره خیلی محدود و ضعیف بنی تیم خلیفه اول و بنی ادهی خلیفه دو دیگوشتند کنار پلن. پسر حجاج ابن یوسف وقتی میخواست بیاد قیام بکنه خودش نمیتونست خلیفه بشه جانیش سقفی بود رفت با حسن مسنا بیعت کرد گفت بیا با اسم تو من رعی بیارم فقط با اجاز شکل در انتخابات داشت اینجوری فکر کنید او تعیید صلایت شده بود آ چرا پیامبر باز و نجات پرستی نیست؟ به خاطر پیامبر بالای منبر فرمود بعد از من دوازد خلیفه کلهم من قراش و در روایت دیات میگه کل کله من منبنی هاشم اصلا پیامبر فهمون کله هم منبنی هاشم این جوریه یه دفعه سخنرانی کرد گفت آقا این بس توی تهران انجام میشه بعد اومدن بیرون گفتن آره مصطفی گفت مثلا یه افغانستانی هم نشسته بود یه عراقی هم نشسته بود چی گفت چی شو گفت بعد ایرانی باشه تهران چی دید ایرانی بودن اونا که غیر بودن میرن گفت هیچ دوباره اینا به بعد از قریش باشه چرا باید از قریش باشه همین خجالت نمی کشیدم جنگ خود پیغمبر نمی این از خدا من بودی چه دین نجات پرستانه این یه فست پیامبر خیلی اعتقاد به دموکراسی داشت به شورا سپرد بعد خودش فقط بعد قریشی رهبری داد اصلا یمنی ها برای چی کینه داشتن از ها؟ برای چی نذاشتن علی عبدالله عباس گفتار درمان بره مذاکره گفتن قرهشی بسته دیگه اینجا هم قرهشی؟ اینجا دیگه پیغمبر نگفته که؟ نه باید هم یمنی باشه گفتن مالک گفتن اون مرد میدان مرد دیپلوماسی نیست دیپلمات بفرستید که؟ عوام اون اونم قرهشی نبود یمنی بود دعوای بود بین احراق اصلا ما جامعه شناسی رو ندونی چی از دین میتونی بفهمی تو باید راجعه اون جامعه قضاوت بکنی. اعراب قراشی. ربیعه یمنی. اینا جنگ جهانی داشتن با هم. کری خونی هنوز هم دارن. یمنیان نگاه کن. هیچ وقت زیر بیلی تو زودی هیچ وقت زیر بیلی تو حجاز هیچ وقت. بله اعلام رسمی بلایت به امامت دوازده ما خود تونو گوه اون به قران قصم من عربم هم نه سید هیچی من, من من که نیستم رو شما وقت هست نمیدونم تو آنجای که میدونیم نداریم ما خب حالا چطور اجدادمون اگه بودم خبر نداریم حتی اول من که نیستم خیلی از ماها خیلی از جایی که همجه نشستیم هم نیستیم ما دیوونه این بیارم مثلا برای یه چیز بی خو... اصلاً خودمون هم نیست تأثبا بریم بگردیم پیدا تو هم همینجوری فکر کن تو چید برمیگرده مثلا به خلافای راشدین از نسل خلیفه اولی یا خلیفه دومی یا مثلا خلیفه سومی یا مثلا از نسل سیدی مثلا چی یه منطقی ما داریم یه اقلانیتی داریم بعد صحبت آخرت ارسناک <تصفح> خب خداوکیلی مثلا بابا هاتون شیعه نبود چی بودید؟ به دین بابا ها خب تو سنی هم همینی دیگه یعنی جبر جنتیکه جبر خانواده جبر زایشگاه خب چه فرقی داریم با اون بطپرسی که مگفت باید باید بطر بیزاری که آبا هاون برو برو آبا هاون الولون بابام بود می پستنم بابا بزن کنار. بزن کنا آی قرآن هم حال قرآن قرآن میکنید میخونید اصلا یه دو دور بخونید این شکلی اصلا گیری کردیم بخش چهارم بلند کردن دست امیر جوری دست هزت رو گرفت که قدر پیامبر بلندتر بود دست هم رو برده رو تو رفتن امیرام رو نکه پاشوای میستد بخش پنجم تاکید بر توجه امت به مساله امامت مساله امامت ویژه حضرت سرفس میکنه بخش ششم اشاره به کارشکنی منافقین میکنه یعنی همه حیات چجوری بود میگفت که نگفتی اینو به من بگی هر کدومو خواستید من براتون میارم بگید امام بگو باشه این خلیفه گفته باشه چش گفته باشه چشم ولی گفته باشه چش کدومو دوست دارید دو چی چی میل داری منو بده من برات بیارم این نهازا اخی و وسی و با خليفتي <تصفيق> باید بگه دیگه بخش هفتم پیروان اهل بیت علیهم و دشمنانشون میگه چی ایانا شروع میکنه بخش هشتم حضرت ولی است به صورت ویژه در مورد ایشون در خطبه قدیر سرفصل است بخش نهم مطرح کردن بیعت بخش دهم ده حلال, حلال و حرام و واجبات و محرمات بخش یازدهم هم بیعت گرفتن رسمی یازده تا بخش داره کل قدیر من کنتم ملا مقصد خودمونیم دیگه چند نفرمون رفتن خود به قدیر خوندیم هیچده سفرست اینو من نمیگم در بدعای نهایه آورده که فقط تبری دو جلد سند قدیر نمیشته تبری اونم باز ما نمیگیم اونا دارن میگن ببین چی میفرمای پیغمبر فاوها الی به من وحی کرد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی یعنی فی خلافت علی ابن ابی طالب <تصفح> اینجوری پیغمبر فرمود اویه نازل شد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یا عاصم کمن الناس خدام تو رو حبس میکنه از این مردم چی میخواسته پیامبر بگی که خدا حبسش بد میکنه ای مردم گوشت خوک حرومه نه بریم پیامبر رو بکشیم نه. جنگ گفته برید جونتون رو بدید نگفت نه همچین حرفی بدبختا مسلمانا میخوام بگم گوشت خوک حرومه ها نه, نه نمیتون تحمل همه زنده بگو نکنید کلی کسافات اینا جمع کن اصلا عرب خوک بوده بخورن اونجا تو اون جغرافی ها چیزایی میگن به قرآن من خیلی مدیریت میکنم خودم من خیلی کنم من خیلی خودم مدیریت میکنم میگم دیویست دارف میاد ای کنتو رد, رد میکنه رد میکنه یه یه دونجون لا میگن. ماخ سین توئیتر یا نه فقط باشون الان بعد عجر کسب کن نمی‌دونم سی ساذر اف سیشن بس بعد از آخرتشون میترسم و دروغ توهمت یعنی چی میگی نه ابن مسعود اینو سیوتی تو درر المنصور میاره جلد 2 صفحه 290 ابن مسعود میگه کنانقرا علی رسول الله ما در زمان رسول الله ما اینو این شکلی میخوندیم این آیه رو یا هر رسول بلغ ما انزل ای رسول برسون بلغ تمام کن تهدید داره نه لحنو نگاه کنید نقل قولو تهدید داره اگر این کارو نکنی فلانا خیلی عجیبه کنانق رفی احد رسول الله یا ایو هر رسول بلغ ما انزل الیکم من ربک ان علی ان مول و ان لمتف الف اما بلغت رسالت میگه اصلا ما میخوندیم <تصفيق> چون پیامبر آیه که شد توضیح داد داخل پرانتز منظور همین آلافی علی ابن عبی طالب ها دید بر تو خوندم؟ میگه ما اینجوری میخوندیم اصلا اینو فکر کردید برای چی خلیفه اول و دوم و سبوم اینو گفتن هیچ کس حق نقل حدیث از پیان بر نداره چون نقل حدیث یعنی این هر برای چی خلیفه دوم هر کسی حدیث میخوند و باش که لغم میزد میگفتن قرآن فقط باید حق دارید بخونید هیچ کس حق نقل حدیث نداره چرا؟ در مورد منع حدیث یک نفر نیست تو اسلام جرئت کنه بگی نبوده انقدر تشت و رسوایش محکم افتاده بود چرا برای اینکه اندیس داشت برای اینکه همش پاورقی داشت برای اینکه توضیحات پیامبر بود کاری که خلیفه سبهان جلجاماری قرآن در ادامه کار خلیفه دوم همین بود حسب توضیحات پیامبر قرآن قرآن علی چه فرقی داره به قرآن هیچ فرقی همین قرانه پاورقی داره عزیزم ها برقیار چی کردن میان تا فرق داره قرآن همیرند اون قرآن که همیره عزت علی جمع کرد که نشست قرآن رو جمع کرد دیگه بعد از پیانبر اصل رو باید حبس میکرد این حافظ اونه اون حافظ اینه سقل اکبر حافظ سقل اکبر سقل اکبر حافظ سقل اکبر حال امام میگه نگید سقیر و اکبر اکبر و کبیر این سقلنه دیگه حدیث سقلنه یا سقله این به غلط از حصف یا دوتا ویژگی داشت یکی این بود پاورقی داشت قرآن نکه جزایه باشه نه سراحتمیسا این توضیح هاشیه داشت دو شهن نزولی بود یعنی به همون ترتیبی که نازل شد چون اون ترتیب قرآن ترتیب تربیتی دیگه الان مثلا یه نفرق شروع میکنه بعد از هم یا اول فض میخوره به بقره در حالی که دقیقاً برعکس نازل شده بوده و تها ته هست اون آخر ماخر یا <تصفيق> ام جز سوره جز سی اون اول بوده خیلی واشه بر طرف تازه مسلمان شده آه داداش من با کفرا چکار کنم اباگو قول یا ایال کافرون لا اعبود ما تعبودون بلامنتون قل قول الله احد الله سبحانه لم یلد ولم یولد قل اعوذ برب الناس م... اینا کوتاه مختصر صریح همون اول میخوره به سوره بقره بعدش الان نساء احکام زنان برو برو جان همش خیلی هم سخت قراش همش کنه و نداره به دست انداز میفته طرف اشکالی نداره نه اصلا نباید به این سمت رفت بعد بعضی تو برخی از برخی از مؤمنان معتقدن که میگن که پیامبر میفرموده این آیه رو ببرید فلان جا بذارید چون دستورش میده بر مبنای دستور پیامبرمون برخی حتی از اینا اما خلاصه اینه که شما یه نفعه می خواهد مسلمون کنید با بغره مسلمون نکنید بگم گارید یکی می خواهد یکی, مخواهد یکی مسلمون کنه برداش بردش گفت برم نماز بخونه گفت من نماز برداش من تکرار کن داری شروع هم دو خون بعد بغره نماز که تموم شد گفت دادا شما خیلی بیکارید دین خوبی آقا من تا باست ما کار زار زندگی باید. گفت نه نه به خدا قسمات من بلند. سوره خوبی انتخاب نکردم. او چیکار؟ نماز بعدی رو فیلو میخونم یا اول فصادو بقره گاو بود انقدر بودین فیله هست روز بعد بخونی لا بود. آره با بقره سراغش ندید همین شروع ببین نگاه کن خدای تو داره میگه به کافر میگه لکم دین و الی دین تو سی خودت مسیح خدا. خدا یکی خدا زایده نشوده نمیزاد فلانی. جز این چیز میبینید؟ خدا بی نیازه از این نماز هم... خو... ما تو دینام باید نماز بخونیم خدا رو ستاش کنیم البته خدا بی ها الله و سمد خب همین رو بگی تو نماز این قول و بلا رو باید نه توی که رکبت ها بخون ها رو هم انتخاب کردیم دیدید مثلا حالا باید برید حج کاری بایدتون میکنن که اصلا یارو شروع میکنه خوندن ها؟ بعد لازم میشه سوره رو کامل بخونه یو ای وسطی یکی میره تو یکی میام اونجا میاد بیرون اصلا یک بعضیه آره خیلی بعد چیه <تصفح> وسط نماز خدا شار، ان خدا توفیق بده اینا ریشه شون کنده بشه یه حج درست بریم گیرمون نندازن <تصفح> وسط نماز سوره میخونه که آیه سجده دار داره والات دیگه جا سوری ای هم دو خونه جا سوری ای ی های سگزار همه میرن تو سجده سجد رو انجام میدن پاامشم بقیه نماز آقا ملت گیت شده یکی خم میشد این سر بازار گم گم پاش او اون می گرفتون بلند می کرد میکنن چکار میکنه یهفهم شیر تو شیر شده بود یه مالزیایی یه کنار من بود من بودم واقعا ما... نمیم جلو خودم مرده بودم از خند من بخده او سجد روفت این بر مناصنده بود نمی چی شده؟ خب؟ باشه صاحب زگو بلند شو فکر می مثلا چیزی شده نمازو ول کمه کلا بلند شو بریم کجا میذیم برو جاش کن اونجا ببوشین وقت نماز رو بخون با خود برای چی من نفهمم سجده چی بود گوی آیه سجده به عربی نمیفهمید یا چی میگه جان من شما توفاوط کرد آره اصلا جمعه حتما می کنم این سجده میرفت جمعه یه دونه فهمیده بودیم این بچا داشته باشید تمام ما کردیم بقل بود، خب بهمالا ما هم میرفتیم میدم می رفت تو چیز اینو بگی به کشش بالا اون یکیو بله سیوتی دورال منصور جلدو سبه دیو سنابش فعلمو معاشرن ناز. آی مردم بدونید معاشرن ناز، همه مردمی که جمع شدید زال کفی که این در مورد ای وفحمو وعلمو بفهمیدش بدونیدش داشت بدونی ان الله قد نصبه لكم وليا بدون خدا او رو نصب کرد برای شما ولی و اماما و امام امام یعنی دوست داشتن ها از شیطان ها و اماما فرضه طاعته فرض کرد واجب کرد اطاعتش على مهاجرین والانصار و على تابعین لهم بهسان بر مهاجر و انصار و تابعین، تابعینی که ما میگیم بعدا میگن یعنی کس که صحابه ندی با معنی نیست و در مورد مثلا اویس قرنی فرمود ان خیر تابعین رجلا یقال له اویس این در زمان پیامبر زنده بود هیچ وقت پیامبر ندید اما پیامبر به او سرفیکیت داد در یمنی پیشمنی سعی مسلم هم آورده گشتم نیدونید از یه سیطن که تا اهل سنت بدو و علال بادی و الحاضر اونی که هست و نیست و علل عجمی و العربی بل عرب و غیر عرب عجم یعنی غیر عرب چون مهمترین غیر عرب ایرانی بودن افتاد بر مادل ایرانی شد و الحر و المملوک و صغیر و الكبیر و و بزرگ سیاه سفید آزاد برده بنده و علا کل مبهدن هر کسی که توحید داره بدونید خدا فرز الله مازن حکمه حکمش است. مازیه گذشت هموشت جازن قوله حکمش مجازه جایزه نافذ امره امرش نافذه ملعون من خالفه ملعون هر کی با او مخالفت کنه مرحوم من او و صدقه خدا رحمت میکنه هر کسی از اون طبعیت کرد او را تصدیق کرد فقط غفر الله له خدا میبخشه او برای او و لمن سمع من و عطا او از او بشنوه و از او اطاعت کنه ولی اینا هم هستو عزیز ما اشران ناس ان علیا والطيبین من ولدی من صلبه بدونید که علی و پاکان از نسلش از ن... از او هستن اما از ولد منن هم استقل الاسقر اون ثقل الاسقر که گفته بودم براتون این نتار کنفی ای کنم ثقل همین ثقل الاسقر اینو و القرآن الثقل الاکبر فکلون واحدون من هما منبعون عن صاحبهی هر کدوم از اونا خبر میده از همراهش خاصی خبر از قرآن بگیری بر از او بگیر و مفا... موافق له. دقیقا موافقه بر همین مبنا میگه مره حدیث بده که مخالف قران بکوبید به سینه دیوار بزربو علج جدار معصوم فرمود و حدیث دیدید که دید دید. نمیخوره با آیه قرآن بگوشو دیوار لم یستر قا حتا يردا عل الحوض یا علی الحوض اینو از هم جدا نمیشن لنگ الان نشون بدید بسم الله سقاله دیگه اصلا سوالی نیست دیگه ال علی الحوض چی اینو کجای افق کجای شهر دیگه اومده مشهد اومدی ها از نه مشهد هم نیست حراتی مرطره چینی سر سودای نوت پس نوره نجعز مجلس اومده لنیف ترقا یعنی چی یعنی همین الان باید کنار هم باشه بس با یه موی داشته باشه از اهل بیت پیغام بره باشه آلو ولی چه جالب بگم چرا امام رو حس نکردن که از نسل حضرت علیه من چرا چون حکومت زمان خودشونو به خطر نمینداخت امام غایبه گفتن این تیکه از حدیثمون رو نداره اون که آخری از نسل اولیشون نه اینا نیست دومی اینا دیگه امام نیست آخریشون از نسل براد بشه از اولاد علی و فاطمه خب اینجا پیامبر می‌فرماد بو از صلب و... من... علی از ولد منه آخری چون کسی به حکومتش رو دارن خطر نمی کرده اشکال نداره مسئله مسئله قدرت بردار من طبعا مملکت خودمون همه شیعه همه خیلیشون مقلده رهبر انقلاب ندید چه جنگ جهانی شد؟ <تصفيق> ندیدید شما؟ بین باز برنخودهای پزشکیان هم نمیگم که حالی خورده اصلاح طلبه بین طرفداره قالیباف جلی چی شد؟ نتره نگاه کنید بعد چرا فهم میگوین مثلا اون یه چیز دیگه بوده فلان بوده اون در چه حدی الان تکفیر دارن میکنن همون تو این شب کاشته می شه شرم آوری ها امینو بعدجدی رهبر انقلاب هم یاد تاکیدی هم میکنه نکته میگه هر کدومم بخش خودش رو میگیره این تیکش برین با شما بودا اون اون یه تیکشیه بل اون فلان بهش کن اینو داره میگه همه رو بگیرید همین پیغمبر تحریف شد متشدید؟ همین جوری. به همین خوشگلی به همین سادگی به همین خوشمزدگی همین الان تو ببینید تازه اونا توشون منافقایی بود که پیغمبر اصلا قبول نداشتن هیچ وقت دین نیورده بودن میترسیدن از فلان و به امان اینا بدانید انهم الله فی خلقه. اونا امین های خدا در خلقش هستن و حکامهو فی عرضه حاکمانش روی زمینش هستن آی مردم الا آی, آی آی آی آی آی حواستون جمع باشه آی وقد ادی تو امانت داری کردم آلا وقد بلغتو تو به تهش رسوندم تبلیغم کامل کردم آلا وقد اسمعتو شنوندم و اوزحت تو واضح گفتم واضح گفتم الا و ان الله قد عز وجل قال و انقلتو خدا گفت بعد من گفتم ان الله عز وجل از سمت خدا گفتم الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخیازا خدا به من گفت منم دارم میگم واژه هم دارم میگم روشنم هم میگم روشن همه تونم هم بدانی امیرالمؤمنین جزء نباید باشه من نیست الالات حلال حلال نیست کسی جزء او لقابم میدارم خودش کرد امیرالمؤمنین بعدی له اهدن غیره برای همین شی حتی ب... یه نفر به ام... امام صدر گفت یا امیرالمؤمنین فقط در مورد ماست جایز نیست برای احدی جزء او استفاده بشه روا هم می یه کسی خودشو بدون جز... امیران اون چه میشه دیگه میدونید اون تکفیری هراتون گفتم تاقصه چی کاره بود آره هر کسی جز امیران مومین خودش امیران مومین بدان ند روایت داریم که اون کار است. و جالبه برید درمادی کسی خوش امیران موندونستان در تاریخی تحقیق بفهمید حتما بله. اصلا بعضی حالا چی سخنرانیم در مورد امام هادی یه خوردی من باز کردم این بخش هنر نمایی هاشون کارشون به این جای رسید حکم دادن فعض آتال از سفر سفر طولانی شد الیک که به زده کر رفتی توی مسافرت گیر کردی طولانی شد آره جهاد نکاه و بعد به هم رم نمی کردن می گفتن باییه الله اکبر حله بعد شیشتا این باییه می سیگید دست تو کلت نزایه الله اکبر نگی. <تصفيق> عواظ جم پنیم برم فرماد جبریل سه مرتبه بر من نوازل شد که اگر اینجا این کار بعد من ببین اول توی مکه میگه کجا میگه همین اومدید نگران و همونجا شمشیر میکشن و باید شمشیر میکشدن اون روز خدا قلبه ها رو دست رو دلها گذاشته باید چون م... بدونید قدیر گوش کنید قدیر صورت ملکی حقیقت علستو براب بکن مگر کسی در روز علست تونست بگه نه کس تونست بگه نه همه گفتن بله. هم گفتن قالب. بعضی بعضیاتون آشکار کرد بعضی تکتمون کتمان کردید. الکی گفتید بله برای چی؟ برای اینکه نعمت عثیری دوست داشتید. خدا میخوان میخواد خلقمون کنه. تو عالم اروا میگه ببینید میخواد برید میشه خلق بشید هستید. عجقا خوبه. قول میذ برافهم گوش کنید. الاستو به ربک من خداتونم. بله. خدا فرهنگ در پدر سوخته‌ای. من تعدیلاتونو دارم میبینم. همه ها این مخصوص انسان ها نیست بر کل هستی این ولایت الله بر کل هستی یعنی بر جنیان فرشتگان همه گفتن بله اولین کسی که لورف شیطان بود شیطان کافر بود قرآن میگه ابا واستکبره ابا کرد استکبار یعنی کان من الکافرین بود از کافر اصلا نمیگه صار من الکافرین شد از کافر که تازه اگرم میگفت شد از کافر یعنی کافر دیگه هم هستند شد یکی از کافرها اما سراحت شما قلی اشتباه میکنید حرف میزه تو دهن قرآن خودش داره که کانه در مورد پسر نو هم وقتی قرق میشیم که کانه منال مغرقین او از غرق شده ها بود یعنی کسی الان غرق میشه که قبلا غرق شده ایمانش مشکل داشته. به شیطان که کانه منال کافرین با یه سجده بکی به خلیفت الله لو رفزد بیرون اصلا آزمون امامت. کچکترین تردیدی در بین انبیان پیش آمده ها بدونید بعضا رشک بردن ای کاش ما هم یک حالی بهشون داد خدا که نگه یعنی حالی گرفته که نگه سه هزت آدم دنبال درخت سیب و گلابی اون چیزا رو دن خدا دنبال این شما او شجره شجره قرآنی میگه شجره مبارکه ابراهیمی به امامت رشک بردن عجب. یا برو بیرون از پوشش برو بیرون اهل تو میاری زیر پوشش حالا عبا به آدم حبام یا پوشش برید بیرون اصلا کسایی که از این فاصله بگیرن یکی از صورتهای ملکیش اثر وضعی زمینیش از پوشش فاصله میگیرن نه اثر داره صورت ملکی زمینی الستو براب بکن که همه گفتن بله کسی جورت نگه بگه نه قدیره میگه همون کسی که بدن زدن زیرش همه اومدن بیاد کرد پیمر نگران با قطعا شمشیر میگنه که خونه که به خودش قطرم خط خط. صورت بگیره میشه مثلا جا دیگه دو دفعه و اگر اینجا انجام ندید هم اومد فما ولفتر رسالته پایون بر وایستاد و بعد میگه ببینید خدا به من گفت منم دارم به شما میگم به خدا شاهد باش ادای تو و عزه تو واضح گفتم با همه جور مدلی که میسازم دیدید آقا همین این علی ها ببین دستشو گرفتم بردم بالا کسی دیگر نمیافت دارم فیزیکی تصویری نشون میدم ها حاضران به غایبان برسانن چه چه چه برای چی بریم زادن زیرش چه جوری شیتون من نزد زیرش من کاری اونجا نمیتونستن حتی یک نفر میگن اونجا انقلت آورد برای نمونه میگه که شابزنگ میخورد تو سرش. میگه اگه اینجوری یه سنگ بخورد تو سرما زار همجا شابز سنگ رد یعنی یه چیزی دیدن که همه خلاف بودن تسیده بودم شاب سنگ کرت جلمون. قرآن اینو جور دیگه هم گفته در مورد یهودی ها میگه اه و قبول دارید میگن بله چیکار کردم اون تا خدا تویح میدمیم میگه. البته کوه هم بالا سر اینا نگه داشته بودم. <صفيق> آیا قرنگ کوردن <روبا> بالا <بالسرش را> سش آدم بله بلهقر میفهمه روگم پ دستخت آ من خبر دارم اینا عاشق گوساله قلب هایشان از محبت گوسال نوشیده است گوساله که موضوعیت نداره خدای آپیس مصر باستان، فرهنگ مصر جببت ای جت یؤمن اول و طاقوت همینا گفتیم او مننا جببت و تعقاوتی چ چیزی ریختن خوشون بی نرفتن ترینولوژ اتوللوژی کنن. تازه یکی از این تفاصیل هم آورده بود خوبه گوش کنید می گفتیم بردم بکن ابن کثیر میگه من کتابی از تبری دیدم دو جلد فقط اسناد عدیز قدیر رو جمع کرده جلد چارده صفحه 849 بدایه و نهایش اگر ناقل بیش از 15 نفر باشن میشه متواتر اینجا هشتاد نفر ناغو کرد مولا یعنی چی؟ بسم چقدر مونده؟ من بیهرو دیگه وقت دارم میخوام پاید یا بذارم 43 بعد. بریم خسته نمیخوامش شما که دارید گوش میکنید اینو اصل بحث اینجاست اما افتاده تو بخش دوم صحبت یعنی انتهای بحث ممکن خسته شده باشید. اینو کات کنید قشنگ برید استراحت کنید دوباره اینو رو بخش رو گوش کنید این یعنی همه چی ما قدیر ماست. مولا دوست سرپرست غلام ارباب اولاب تصرف اینا معونیشه آخه دوست داشتن نداشتن که با امر و نایمگه درست میشه هر چی معنی دوست دارم باید دوست داشته باشه دوست نداری اینقدر میذنم تو دوست داشته بشه یارم میگه منو دوست داشته باش میگم دوستت ندارم اینقدر کتکت میزنم تا منو دوست داشته باشه خیلی منطقی نه نه همش کسی به طور شما بخویم حتوی خیابون جرد تو بگه سلام علیکم من دوست داری یا نه ببخشید چرا تا به نمیارم دوسم نداریم نه غلط کردی چوبو ببینم درازش که تا میخوره بزنید باید دوسه چشش میمن و حتما دوست دارم آقا بنا. بیره چه نشون گفت فوش دادن معلم دستم ابسر گرفته بوده سلام علیکم منده معلم هستم شلون ابسر اعلام کنم بله چش خوروان موسی باید عاشق باشید. ای این دیگه چی موامس ببخشید زنگ قبلی با هم دعوامون سر ساندویچ من جفان من با فوز رفتم رو زمین مثلا من بگه برپا چشم بگه برجام چشم دوستش ندارم چیجوری باید دوستش نمی بایدید عقل خدا خداوکیلی <تصفيق> چرا چیزی که خودتون انجام نمیدید به پیغمبر خدا نسبت میدید این دروغ بسن نیست عجبا نه انگه میزنم دوست دوشو بعد این همه مقدمه چینی آی مردم خدا اینجوری گفت هیچ وقتی که پیغمبر اینجور حرف نزده همین یه باره چی؟ همه برای دوست داشتن که اونم تو دست خودم نیست یه نفر نبود برگرد بگید این همه اعتراض من از صحابه دیدیم تاریخ طور اعتراضات صحابه است اینقدر که آیه نازل میشد آقا خجالت بکشید اصلا اینو موراعت پیغمبر نمیگه کلر می نختم. مثل چی می تو خونه پیغمبر سه نصف شب سه نصف شب تخت تخت دو تا در میرن حول ای در آیه نازل شد این پیغمبر خجالت میشه به شما بگه من خجالت میشه حیا کنید لامه سب در میزنید ازم بخواید آیه آیه آیه آی قرآن این خجالت بکشید خیلی داریم هم پیغمبر اوزان اینقدر حرف گوش میکنه اینقدر بهش انتقاد میکرد اینقدر هرچی از ننش کار میکن نیوجه پیغمبر حرف می‌زاد اسمش گوش دادن گوش آیه قرآن اومد که برای شما همین گوش باشه بهتره براتونا بعد صد هزار نفر ملت رو جمع کردید آقا باید دوست باشه بشه. یا رسول گرفتیم ما رو توی زل آفتاب سر و سول کشیده ملب اونایی که رفتنه برگردونید اونایی که بعد این جدا می شدن چند رایی می شد اون هم بگی بیا همه جم بشن فلان. یکی زاییده یکی پیره یکی همون ما حج رفتیم تا همون حج 60 نفر مردن از ایرانیا ها پیر بود یا رو مرد توی هم گرما خدا منا سرتون نیره چرا سرتون بدنی خوبه برید حج یه دور برگردون بود بعد دور میزدم. من تو عمرم کسی انقدر نفرین نکردم که آل سعود من تو اون 7 کیلومتر اضافه گرفتون نفرین می‌کردم خداش ببین بغل این فقط این پیرمرتیر زنا بودن که همه افتاده بودن خیلی هاشون هم مثلا این هند و این جور جاها چون پشت مسلمانو نیست کشورشون چون هم زیاد مسلمون زیاد داره اینا که میان اصلا صابم وای نمی‌سته کشوره اگه مرد میگه به جهنم که مرده. کشور اسلامی که نیستش خودش مشکل داره مسلمانونا به زور رو میکنه متوفر شدید؟ اینقدر یه دور برگردن با دور میرفتیم چادرامون دور برگردون رو بسته بودن ما رفتیم اصلا از محدود خارج شدیم یعنی اصلا شعال شرعی برای اون بیش اومد جزد. خیلی یعنی شما فقط باید هر چند قدم چند قدم خیص خالی میکرده خودتو بتونی ادامه بگی. نه چیزی میده رو سرت بگیری نه اید بعضیه دیگه خ تو اون گرما تو اون گرما همه رو نگه داشتی میگم و زن زاوی داری تا نمیدم چی, چی همه جمع شد همه رو جمع کن بر دوستش دار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نخواد قبول بکنه طرف نخواد قبول بکنه باز مثال بزنم یکمه امروزیش کنم یه جلسه بود مشهد بین جلیلی و غالی باف. صحبت سریعه که کی بماند کی بروده دیگه چه ها نقل شد پس خواهش میشه امروزی ببینید ماجرا رو من ما قضاوت نمی کنم واسه هیچ کدوم ها هیچ کدوم دیدید دی اینا رو همه نره حی حاضر زنده ای تمام افراد حاضر زندن تمام کسا که تو جلسه بودن همه زندن هم مدل نقل و قول بیرون. از این چه سی دستا نست رو زده تو داری تا نمیدونم سردار قانی چیز کار کرده تو داری تا این که, با که به اون یکی به داداشش زنگ زده گفته به بیت بپرس ببین راست میگه داری اوه! اله ماشاءالله که ماجرهای انتخابات باید یه زمانی باز بشه برای شما. آره همم هم وایستدن همه چی میبونم. حلیه دوستش دارم. این علی هم دوستش دارم. با. بیا بیدیم این خواهم بدم بعد اینقدر مهمه که رسالتش به همین بستگی داره هیچ کدوم اونام صداشون در نیمده اینو ببخشید در ادامه چه مقدمه بود؟ این من کنتم اولا مقدمش چی بود؟ من اولا بکن من کنم. آیا من اولا هستم به نسبت به خودتون یا شما؟ آی قرآن مردم آیه قرآن خوندن چی بود نبی بالمؤمنین من انفسهم من اولا نیستم نه من گفتم بله آیه قرآن رو قبول داریم این اعتراف رو گرفت بعد فرمود شعرا برای این شعر گفتن شعر حسان ابن ثابت هست مثلا یه بخشوش میگه رزی تو من بعدی امامن و حادی ها امامن و حادی هم امام یعنی دوستت هد دارم هم حادی یعنی دوست هد دارم لغتنامه یکی؟ برادرها امامن و هادیا ها برید ببینید شعر اون شعر تو چه حوزه شعرها در... شعر در مورد قدیش شعر گفتن برید ببینید شعرها در مورد چی صحبت کردن گفتن دوستت دارم میدونی این کار دل، اصلا این چیزا گفتم اصلا خودم می ای گناه من نیست تقصیر درمی قبول دارم در محبت اصلا دست خود آدمی دل کشش پیدا میکنه اگه که خوشت میاد می یکی بدت میاد دخترم مثلا برش خواستگار اومده بابا نگاه کن مهندسه بچه خوبیه نمازخونه اصلا به این چقدر مهند اصلا این داماده اصلا دامادی که مادر زن باید درسش بدنه نجم این شریعتی اصلا خوبه اینو میبینیش حالا زنش اون به دلم نمیشه بی خود باید دوستش دوشت باشه لامستم خودت اینجوری شوار میکنی خودت اینجور دخترش شوار میدی برای یه ازدواج نه باید آشقش باید جوری باید دوستش دوشت باشه وگرنه عذاب اقاب سهر همه این هفشت جهنم ها همه حواله فقط دارم بحث عقلی میکنم که بعد این حدیث فلان اون یا آیه قرآن دارم برد میکنم بعد جالب خیمه زدن. گفتن تمام آدمایی که اینجا بعد به بیعت کردن. زن ها گفتن ما چجوری بیعتون گفتن اوه خب این باید یه کاری انجام بده که بیعت طلب. از راه دور ما قبول نه خیر باید یه کار فیزیکی کن نا محترمه یه تشتاب گذاشتن امیرمون دستش تو تشتاب می اومدن ور تشتوب دستش می سه روز طول کشیده بیعته. سه روز اون همه جمعیت. یه استادیو مازادی هنو. همینو باسه بود بگم. دوست دارم. میدونی. بعد برید. بیعت کنید. مبارک باد مبارک باد. هم باید بگید. فقال عمر ابن الخطاب. بخن بخن لکی ابن عبی طالب. مبارکت باشه مبارکت باشه هم نمیتونی اصبحت مولای شدی مولای من و مولا کل مسلمن و مولای کل مسلمین فانزل الله اليوم اکملت لكم دینکم و فلا و خدا برای همین این امایار نازوی کرد <تصدق> بعد آقا خیلی مومن باید دوستش داشت با هم دوستن قبلا قرآن نفرماده بود مومنین با هم دوستن نداشتین؟ مومنون بعضا هم اولیابه مینی می دوست داشتنه. فر همینجا بود. این چه مدل دوستیه که که هم دوستی باشه به فرض چه مدل دوستی که فرق داره. با راه ها حضرت زهرا خود امیرالمومنین به همین اشاره کردن به قدیر به عنوان سند خودشون حقونت خودش. امیران اون بعد از 25 سال به خلافت رسید. حالا بالاخره من خلیفه شدم. میخواستید ماله بکشید، نذارید، کاراتونو کردید، هر کاری از دستتون برمیومد کردید، بالاخره شدم. حالا خدا وکیلی کدوماتون قدیر یادتونه تونه شیعه و سنین رو نقل کرد تعداد اختلاف نظره یاده گفتم گفت نه باید پاشید وایستید تو بلند شدن وایستیدن کلام پایین بود توش. یه خلیفه است دیگه انس مالک اون جلو نشسته بود خادم پیغمبر سرشون رو خوانید از غذا تو همین جلو بودی جلو جهاز ها بود شون خادم پیغمبر بود هم پیغمبر پیغم و گرفتم <تصفيق> آلزایمر گرفتم و نسیان گرفتم پیر شدم همه فهمید شنو که راست میگی امیرال مهم فهمید اما اگه دروغ بگی به برست بمیری یه بیماری پوستیه برید ببینید جناب انس به چی مرده برید تاریخ بخونید جوری هم برست بگیری که با امامت نتونی بپوشونیش. اگه یه لکی اینجا دفتاد بیاری پایین تر امامت رو برید ببینید جناب و اندست با چی مورد خیلی مظلومه امیر المومن. خیلی نداریم رو دست امیر المومن مظلوم نداریم هیچ کس اصلا دعوی مظلومیت موسم به خاطر امیر المومن تبعی اوست گفتن باقزن لعبیک همه دعوی هستن مولاستن من نجف که میرم چهار ستونه بدنم میلرزه. بدترین روزهای زندگی من والله بالله الله روزایی بود که من گفتم تو به میران نتونم. بدترین روزهای عمرم بر من گذشت. من حرم بقیع امام ما میرم میگم ما مخلصیم ارادت داریم دربست میدونید. اما بابا تون یه چیزی هست حرم امیر المومین امیرم روبه بومبت بایمیستن میگم آقا همه یه ها سر شما بود همه دعوا ها سر شما بود به اون خونه حمله کردن که حکومت از شما بگیره. امام حسن زدن به خاطر شما بود امام حسین زدن به خاطر شما بود الان هم شیعیانت رو میکشن به خاطر شماست. تو شاهد باش ما پشت بلنگو داریم میگیم اون اینجا هممون من به نماندگی از این ها میگم شما همین این چه پیمان بر فرموند و قبول داریم اشخد و النعلی هم الله شهادت میدیم ما رو با او محشور کن و کسانی که در مقابل این همه استدلال نمیخوان به پذیرن با های با غیر او محشور کن های آن می فرماد من اگر قدیر رو نگفته باشم بیست و سه سال نبوت هم حبت میشه ویلم تفال فما بلغت رسالت هم دیگه رسول نیستی اصلا شما دیگه رسول نیستی مردم اون بنیان های اسلام رو پذیرفتن بنیان اسلام علا خمس چهار تاش قبول کرن پنجامه قبول نکرن الولایه اون قبول نکردن همان اتفاقی در زمان موسیٰ افتاد برای گرفتن ال رفت, رفت قرآنشون رو بگیره برگشتید ها رو نظل کردند. چی جالب قرآ می... همین صورت تاها میگه ها صورت تاها میگه اینا صورت تاها میگه صورت تا خیلی عجی اینو گذاشته بودم یه جایهایی شاللا اینج نمیخواستم بگوگوم باش. شدم تو اونجا که تو میرسیم بگه یبن تاها اونجا بذارم براتون باز بکنم صورت تا صورت تاها خیلی صورت تاها رارف. اینا ادله همن توضیح میدن ماجرای حارون رو کلمه به کلمش امیر المومدین. زنده باشم براتون میگم براتون میگم کلمه به کلمش امیر المومدین. شما اگر از تعجب انگش به دهان نموندید کلمه به کلمه یعنی حتی اگه گفته سامری گفته یا سامری چرا گفته یا سامری تا این حد چرا گفته اجله؟ چرا گفته خط به ما خطو که یا سامری چرا گفته برای الا ما لما سوق دفئ هم وقت بر او انهم قد ذلوا چرا همه اینا نیازه این گفته بوده جالب اینا میگن ولی میشه ثواب پیغمبر این کارو کنن ببخشید ثواب اون پیغمبر تونستن ببخشید عذ میخوام قرآنم گفته من شرمنده شما میخوای اصلاحیه بزنیم قرآن؟ میخوای حسکنیم این رو به تیری جقباتون بر نخوره؟ میخوای؟ بعد برگشت دین موسا بدون جانشینی هارون بگو خود موسا به دردن آقای و الگل الوا یا اول فضل و الگل الوا پرد شد اون طرف قابلش. شما شما سرمون به شو نیستید <تصفيق> و القلال با یه قرآن یا اطرت گفت بعد من جانشین هارون آیه قرآن هارون اخلف نیفی قومی هارون خلیفه به جانشین منی تو قوم من باش میخوام برم برگردم رفتن سراغی گوسالهی گفتم میه خب افنان صوراقی گساله بعد مردم میگن نمیدیدید لایو کلمم نمیدیدید کلام نداره فقط همینجور ویر, ویر میکنه گوساله صمیره صدایی میداد بیرون میگه نمیدید صوت با محتوانه میخوره خب که چی منظور چیه کور بودید برگشت خوشحال خوشحال یا بلفز اینا همه دارن گوساله میپرسن اما گوساله رو دارن میپرسن طبعیتش رو قبول کردن گوساله رو و هلغلالبا قرآنشون رو انداخت چی بگم حالا قرآن سر نیزه بره تارخ <تصفيق> تکرار بشه خوی دوست داری میخوای آفر بده نمیشه سر پا. نیزه نزیر دست و پا بره زمان یزی زیر دست و پا رفت و کی؟ چی باغه مد... مدینه چی دست و پام رفته نگران نباش چی دوست داری همون رو سفارش بدی منو بده منو باز قیمت حساب شده تا می‌خوری سفارش بده چی دوست داری چون انقدر حق آشکاره امام انق مظلوم ها یک از نه بعد میگه نه اون بالاخره بابا پیغمبر اولو از مده اونجا میشده نه ما همه صحابه می이란 بهش چطوری آخه با هم جنگیدن ببخشید این صحابه هر کسی که پیغمبر دیده باشه تو اهل سن ایش میگه صحابه سعی بخوام میگه صحابه, میگن صحابه. میگن هر کی پیغمبر سلام صحابی میشدی جدی میگم او می پیغمبر اون پیغمبر بچه 5 ساله الان میگن صحابه میگن چرا میگه این از بنی صقیق بوده بنی سقیف آمده, آمده است در قرآن حجت بده و, و همشون رفتن شرکت کردن چون همشون شرکت کردن پس لابد دیده پس صحابه است. پدرتو در میدن حرف بزنی بعد به صحابه حرف بزنی تکفیرم شدن دیگه میکشنه و میگه ببخشید من عضو میخوام این منافقه که تو قرآن تو مدینه بودن اینا پیغمبر ندیده بودن چشه مثل اینجوری از زیر بودن رسول الله آمد گور باش دور باش صحابه نشوی <تصفيق> بعد این منافقا بعد سیخ داغ و تنور داغ و اینا رو داده بهشون اینا چی هن؟ ببخشید یه صحابه امیر المومنین یه صحابه معاوی با هم جنگیدن از هم کشتن جفتشون میرن بهشت خدا شاده سرکارت نذاشتم این واقعیت به امیر همه میرم بهش فضولیش هم به شما نعیمده کتابم نوشتن هاویه رو گفتیم اون چاه آتیش من سب علی صحابه ول معاویه فا هاویه هر چیز سب بکنه به صحابه حقیقی پیامبر برد جایگاش در آتش بود. بله جالبه همه اینا برای موسانه <تصفيق> بند خدا حالا اسم موسا چند بار تو قرآن میده 146 146 خورده ای. 6 و 9 بار چقدر پیغمبر خود رو میده 4 بار یه چهار تا اسم خود یه اسم احمد اومد 5 تمام یصلا اینقدر موسا شهر داده برای چی؟ اصلا خدا هستن این گرد موسا خیلی دوست داشته این موسی رو بگی ابراهیم یه خدا آورد موسا موسا 70% پ... موسا به اضافه کنید چون موسا عین پیانبر ما رفت سمت تشکیل حکومت حضرت ابراهیم نتونست حضرت هیستا به سلیب میخواستن بکشن نوه بند و خود و خودش مده کشتیش خرار سوار کرد نار سوار نکرد والا رو دمیجوردان دم خیلی درد داره فکر کن جا پسر نوه باشی داره قرب موشن گلو گلوب داره آب میخواه خره بالا داره باید دسته کم میده ماهده <تصحنت> 67 <تصحنت> <تصحنت> یا ایوها الرسول بلغ ما اونزل علاق من رب بگم این لما تفعال و ما بلغت رسالتا و بل لا یعصام کم ننلاست الله لا یهد القوم الكافرين، این چه تهش خب باشد یا ایوها الرسول یا ای ایوها بازم ای آهای با تو هم حسنگاه خدا خیره پیغمبر میخواد بگیری نوزو بالله باید میخواد حس بگیری یا یا ایوها الرسول الرسول الرسول سیره مبالغه غیر رسالت خیلی قرار برسونی <تصفيق> بلغ ابلاغ کن بلوغ یعنی دیگه رشد تمام بالغ شد تمامش کن با رشد رهایت رشد و ارشاد برسون بعد نگفت نگرفتی چی گفت اما چی می گفت نگفت یا ایها نبی بیتونه سایی بگید یا یوهن نبی اون موقع تو میپرسیدی اصلا یا هر رسول تو الان باید جیز برسونی ارسال نامه رسوندن یه بسته پستی بسیار مهم است میری بهشون میرسونی بسته رو باز میکنی توجیهشون میکنی شیر فهمشون میکنی اینا امضا سر انگشت میگیری یه دونه نرم افزار داری نصب میکنی آخرش میگه اگه قبول میکن تعهدات تو آی اگری آی اکسپ آره قبول می‌کنم همینجوری که شما نه شما میزنیم نیکس نیکس می‌کنی میریم جلو نرم وصل نصب این فلان فلان شده هم همینجوری بودن ها تون تون گور گور رو گر زدن فینیش تمام ریستاد رال ریستارت چه شوه باز جهنم خود الهی کی من داش جهنم میزنم ببین یعنی باید یه چیزو حجت و آشکار تمام بکنه این جلسه جلسه خوبیه و بدی‌ها همگه که خوبه پدر هست. بد بر بد خوب بر خوب. حجت تموم کنه؟ این صحبت سخن برسد دست یه نفر. بعد این اگر حجت اشکار نداشته باشه نمی‌گم حرف من کامل کننده اوت. من که خودم حرف با فلامامون. بعد جالبه دقیقاً میگه نبی خبر نه رسالت بعد برسونید. بعد دقیقاً با هدایت تمام میشه. بعد من ربک یا یار بلق منظره من کی؟ من الله نه. من ربک رب قصه قصه تربیت قصه قصه رشته قصه مربیگریه بگو مربی فرموده بگو من ربک رب بگو من خدا گفتم تحکیل کن نگم من, خود... من از خودت داری میگی دیگه چقدر باید است؟ و جالبه از آخرین سوره هاست حج و نماز و معاد و توحید و اینا همه رو گفته چه چی چیز جدیدی میخوای بگی آیه رو که میخونید حالا <تصفح> میرون جلو از چیز نمونه تماش بعد بلش کنید تا که سکن امروزیشو نگاه کنیم ورژن رسالت بلق علی بله غیر علی ببینیم چی شده امروز رو کره زمین بلغ علی رو دیدیم تو ماجرای غزه بلغ غیر علی را هم تو سوریه داریم میبینیم خوشکل تراش تو راهه آی مردم در مورد سوریه میگم روزهایی در پیشه یادتونه سر ماجرای خانم محسنا امینی گفتم گفتم اینا اتفاق افتاد اینا تعجب نه خیلی عجیب بود اینا فانتزیه پیش اون چیزه که دنیا پیشه قذره دیدید لبنان رو دیدید سوریه رو میبینید سورینایی که باز تا الان دیدید نسبت به آنچه که در پیش است؟ نمیگم هیچه اونها دنیایی در پیشه ده این دهه این دهه ده. تو سوریه اتفاقاتی بیافت فقط آیسته انقدر اینا از هم بکشن انقدر از هم بکشن که فقط ببینید. شیعه خون داد من نمیخواستم این مشتبه. من بر برماندان سنت ها الهی تفسیر و تحلیل میکنم وقایی ها خیلی وقتا که از اناسرش برماند شیعه حقانیت خودشو نشون داد الان خدا فهمد یه دقیقه شما بیاید بیرون باشون کار داره. داریم می‌بینیم دیگه دو ورژن اسلامو دیدیم. اسلام علی، اسلام منهای علی. اسلامی که علی، اسلام تزومی، اسلام که علی هم یک از 12000 تا پیغمبر نه یکی ده تا 10 تا اشره مبشره. چوس همین همین همین عرزلو باش، همین زامبیا، همین یعجوج و ماجوج. چند وقت پیش تو ادله بیادونه مسجد درست شد. درسته؟ مسجد اسمشی چی بود؟ از زهرا و ما را چیکارش کردن سنگ فرسک کشیدن کردن مسجد العزت و لله درسته نوشته جلالش می چیه اون مسجد اول به نام کی بود بگی اه دیگه اهل سنت صحابه را استفاده کنن قبلش حتما بعدش یا قبلش نشانه احترام استفاده میکنه میگن رضی الله عنه اگه رضی... زن بشه رضی الله آنها همین همین سلفی رفته بود تو حرم از زنبت دیش میگو؟ می گفت اینجا رو میبینید سلفی می گفت اینجا سیده می عز از اینم رضی الله عنها هم میگفتید صحابه اساسا پیغمبر دیده متوجه شدید چرا این از ز... این مسئله زهرا رضی الله عنها نداشت ها توهین بود اون چه دل... علاقه داشتونه که ساخته که اسم مادر یارو زهرا بوده نظر کرده بوده از عرصم برای من یه مسجد بساز اونجا این هم مثل مادرش چه گذاشته ده هم رو. اونو صاف کردن <تصفيق> اسم ننه یارو بوده <تصفيق> با این اورانگوتان طرفی شما اینا ورژن اصلاح شده بعد 1400 سالن با یه همچین جماعتی طرفی بعد از 1400 سال اصلاح تازه شدن این ببین چی کشید امیر با اینا ببین چی کشید رسول الله با اینا حالا اینقدر تحکید لازم داشت باید اومد؟ بله بس ببینید امروز برجن اسلام علی و اسلام غیر علی آیات قبل و بعدش هم خوبه آخه جالبه. آیات بعدیش اهل کتاب کافر میدونه اگه جلوی این حقو ایشا کفران کرده ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل اگر اینا تورات و انجیل رو بر اون که ما هم من هم. که نازل الایهم ربیم، اونجوری که خدا برشون نازل کرده بود اقامه میکردن اگر این کار میکردن از فراز سربذیر پاهایشان روزی میخوردن خوردند و اینو برکت میدادیم بعضی از ایشان منهم امتون مختصده بعضی از اینشورا مردم یانه رویان و کثیر رو منهم صائمات اما اکثریتشون بسیار بد کردارن ساعه ما یعملون بعدش قول یا اهل ای... الكتاب لستم علاشن هیچ چی نیستید هیچ چی نیستی لستم علاشن ما آدمی حتی توقیم و تورات و, و ما انزل الیک من رب بکن. الا آنچه که از جانب پروردگار بر شما از تورات و انجیل نازل شده است بر پا دارید آنچه از جانب پروردگار بر تو نازل شده است بر تقیار و کفر بیشتر اینها میافتند دیگه این پیغمبره و لایزیدن یزیدن کثیر هم ما انزل زلیلک من ربک میگه اینا می دقیقاً ببین آیه قبل آیه بعد کفران آیه همون یهودیت کتاب لای آمده و این کار نکردن کافر شدن یعنی چی میخواد بگه مسلمان شماون قبل کافر میش. میگه میدونی چرا یهودی ها لعنت چون میکنم؟ یهودی می خدا وجود نداره؟ چی میگن؟ و لعنا هم قتلو به ما قالو لعنت بر نباحت حرفایی که میزنن خدا با این همه فوشی که خودت قرآن به یهودی داره چیه؟ میگه احچیکستید و به ما نقضه میساقه هم و لعنا هم و جعلنا قلوبه هم قاسیه دلسنگ شدید هدایتو نمیپذیرید حق رو براتون بگن نمیفهمید. نمیده ما نمیشین من که خودم قشن فهمیدم یعنی عهدی با خدا میبندم میشگونمش قشن میفهمم که بیتفاوت میشن مثلا بیه سه شما حتما اینو رو حس کردید یه قولی میدیم مثلا نماز اینجور کنیم یه عهد هم ساده میزنی زیرش قشن سنگ شدن میفهم حالا در این حد که دیگه هیچ سیاق آیه نشون بده این همون ادامه تورا تا انجل قرآنه این آیه سه بار نازل شده در حج سه بار نازل شده این آیه در مسجد خیف و امرو هم در قدیم سه روزم ایام ولای گرفته سه رسول کشید بیان بعد جالب اول از توحید و معاد بعد رفتن خودش پیامبر بعد اعتراف گرفته بعد جمله معروفونه یعنی چی آیه بعدی م... مائده سه هم مهمه گوش کنید جالبه تماشا کنید آخرین آیه حر مطلق علیکم ال میت بر شما حرام شد گوشت مرده دم خون لحم خنزیر گوشت خوک اینا دقت کنید چرا تو این آره؟ می رسیم تو میگم و ما اهل غیر الله بند اینو بگذرم حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حیوانی که به هنگام کشتنش نام دیگری جز الله را بر او بگویید و آنچه خفه شده باشد یا به سنگ زده باشد یا از بالای در افتاده باشد یا به شاخ حیوان دیگر بمیرد یا درندگان آن را خورده باشد هر حلل میگه مگر آنکه ذبحش کنید و نیز هرچه بر آستان بوتان ذبح شود هر چی بر بوت بری ذبح کنید و آنچه به وسیله تیرهای قمار قسمت می‌کنید که این کار خود نافرمانی است زالکوم فس یهویی وسط ایناهم الیوم یا اسلذین کفروم دینکم امروز کافران از دین شما نامید شدند دیگه دیگه من میدونم بتونم بزننش از اون از, آن از آنها نترسید و فلا از اونها نترسید از من بترسید ترس تو دل بوده که چی کی بگی گوشت خوک عارمه <تصفح> قبلا اینا رو نگفته بودی یا رسول تو بقره یادت رفته خدایا اون روز چی بوده اومدم بهتون بگم مردار نخورید آجا <تصفح> الیام اکملت لکم دینکم و اتمم تا علیکم نمین امروز دینتون رو کامل کردم من نعمتمو تمام کردم تمام همه نعمتو رو بهتون دادم تا دادم هیچی نمونده بیاد و اسلام را دین شما برگزیدم. اون اسلامی که از اول به ابراهیم گفته بودم میاد ما کان ابراهیم یهودیم ولام یا بلکان، حلیفن، مسلمان امروز تمام شد مرا... مبارک زود باشه ابراهیم گوشت خوش میخورد گوشت مردار میخورد موسا میخورد گرفتیم آره خدای ها در همین حد استدلال منطقی کافی به من دیگه داریم بر بچه های دو سه سال استدلال میاریم فکر کنم الان بعد ادامه یهوی بس هر کسی که در گرسنگی بیچاره مان بیان که قصه گناه داشته باشد بدونه که خداوند خب اینا که گفتن گوشت مردار نخورد اما داشتن میمردی یا جزوری مثلا عقل میچه میگن هیچ چی بود این وسط قشنگ معلومه نگاه کن این مال اونه یه چیزی وسط اومده تو این خیلی بحث کردن انگار این وسط اضافه شده برقی گفتن اصلا این آیه جاش اینجا نبوده اون آقایون که داشتن جمع اوره میکردن اینو گذاشتن اینجا بسر شدید؟ که گفتم قرآن امیر ما داریم ما رو باید زیاد داریم میگه این آیه جاش اینجا بود کم نداریم نارو. هیچی از قرآن هست و اضافه بگید نشده یه حرف نشده اما فصل دو رفت و فصل سه بره چیز که کلشو میخونه فرقی بگید نه دارو ما نرم افزار میزنیم همه آیه میم کنارم برش الیام یعنی چه روزی؟ روز بهسد روز بعد روز خندق اینکه سوره ماعده جز سوره های آخره که یه امروز دیگه هم داریم الیام الیام اکمل تولکم دینو کن, کن. الیام یعی سل لزین کفرون دینو ای هم خیلی میخورا و این دین رو هم برای همه شما پسندم هم. حتی یهودیان، حتی مسیحیان اونم دو مال اسلام بودن آره. و اینو بدونید کامل شد و تمام شد دینی که یقینا رهبر نداشت رو زمین میخوره چی <تصفح> معرفی کردی؟ نعمت سراط مستقیمه سراط اللذین انعمت نعمتو رو تمام کردم یعنی جز قدیر نمیتونه باشه امروز دینتون کامل شد بودا اینو قبلیاره همه رو گفته بودی حرامه چیه چیز جدید امروز گفتی که کامل شد همین من هم بگو. اونا که تکرار بود میدونستیم فکر کنیم مسلمون آخر سال آخر بعد 23 سال برای من میگه نرید یه وقت گوشتا خوک بخوری یا به دست اختار نه قول میدیم نخوریم آه پس کامل شد نمی‌ممنونم پیام بعد نمی‌دونستیم ما همین دمی همین حجو که زدیم من 70 تا رفتم یه سی خوب خوش گوشت خوب زدیم جو گوشت بوسمند زل نه دیگه نبات بخور آ نمی‌ این نبات می‌خوردیم آها الیام دی ال... الیام تا... کامل شد دینمان نمیتونه به حساب باشه برادران اهل سنت میگن این روز به حسابت چرا چون به حساب شروع دینه کلی از احکام مونده چجوری میخواد دین کامل بشه؟ کجا معیوز شدن کافران؟ کافران هم خیلی پر انگیزه داشتن میجنگیدن بعد رو اهود و خنده کجا کافران معیوز شدن؟ خیلی پر انرژی کارش تمومه چل نفر بفرستیم تو خواب بکشیمش کجا معیوز شدن؟ چه کسی معیوز شد؟ تمام کافران آینده هم معیوز شدن نمیتونید دنیا رو بگیرید آیش سهیونستان نمیتونید میدید چرا چون دنیا علی داره <تصفح> تمام نمیتونید معیوس باشید نمیذارن این آدم نمیذاره همونی که روز قدیری بود بودن نخواهد گذاشت باباتون رو در آوردن ببینید بچه هم هستن تو غزه سنی داره کشته میشه یمنیه عراقیه لبنانی ایرانیه داره میجنگه سوری که دیده یه بشکن زدن برادرها دو دستی تقدیم کردم میفهماد نه ترسید ازشون از من بترسید الان ما میگیم از زنگیستا ایشگی نه ترسید بترسی خدا حالتو میگیره نه تا زنید بزنید بقیش با خدا کاراتو درست بکن حتی اکثر کاری که میتونی بکنی انجام بده بزن محکمم بزن عربدن بزن ده تا مضافه زروش باید ستا به چی کار میکنه به تو چه بقیش؟ تو منطقه تو بچین زمینی تو کامله، زانش اتاره تو بمنده تو کورسی هم بخون باید ستا به چی کار میکن اسرائیلی ها رئیس دستگاه اطلاعاتی آمانشون رو عوض کردن فقط به خاطر اینکه تو تحلیلشون گفته بود ما کنسولگره ایران رو بزنیم ایرانیا جواب نمیدن یعنی جواب دادنه ریخ به هم سیستمشون میزنن یقینا میزنن میزنن باید شرایطش فراهم بشه بعد صادق میزن. شرایطش باید فراهم بشه اون چیزی که زمینی میگه فکر کنید یعنی درست بود بود با. پیامبر خندقشو کند امیر فرستاد بره امر بن عبدویدو بزنه با بهترین سلاح داشتن ببین در روز نکن در روز اهود خدا میگه لا فتا الا علی آقاییچ جوان مردی مثل علی نیست دم علی گرد دم زلفقارش هم گرد دقت کردید عجب شمشیری داشت صلاح و دوشت باشی تو درست کن تو کارت درست کن مطمئن به خدا عصابی هفکن و از اجدها ها محراز رسیدن اونجا قفل شده بودید جلو دریا لمادرکون پیدا میکردم شروع کردن قورقور کردن ما رو برداشتی آوردی حالا اونجا چهار تا پسرمون هم سر می‌وریدن مگه چی میشه دیگه اینجینیام که تیک بون نام عرابه ها به تازه داشم چه گرد و خاکش می اومد انما ی ربی ساهدی خدام با منه را باز خود موسی هم نمی‌دونه چه اگه موسی می‌دونست که از اون هنر این نیست بر هم علم خزانه دارد بحث امامت و اینا رو کلی بحث وقتش نیست خوبه برای اینکه دهن خیلی‌ها رو می‌بنده به مردمی. سوختم بله جنگ نظامی بخوای بکنی جنگ نرمه می‌کنه نتانیاهو رو نگاه کن کنی. یه گوش کن یه خانمی رفته توی کاروانسرای پخشه زنده لایو یه دونه یوتیوبی کنسرت رفت تو کنسرتش زن... چیزو خونده از خونه جوانان وطن لاله دمیده بعد نتانیاهو موقعی که داشت آتش بس لبنان رو اعلام می‌کرد گفتم من مجبورم بعد من رو ایران تمرکز کنم چون می‌دونه ایران وعده صادق اطلاعات دارن می می‌دونه یقیناً خواهد خورد. میگه ما با تمرکزم دیشا اومده یه ویدیو داده بیرون آی مردم ایران پولتون دیده؟ دیدی حمر حرم کردن 12 روز فلان کردیم اونجا دیدی چی شد فلان جا را رائل ما با شما دعوا نداریم زان زندگی آزادی. یهویی. زن این آزادی هم دوره میاره اون وسط. بعد ترام مسابقه کرد باز ازش پرسیدن با تایم مسابقه کرد آقا جنگ می‌کنید با گفته گفت هر چیز محتمله. با روسیه نه نه نه ما به که حق ندارم مشکل شکلی استفاده کنه. اونجا این پالس این تا این طرف بعد این در آستانه این اعلام این قانون چیزه هجاب و افافه خب همه اینا چرا راه هم یعنی چی <تصفيق> یعنی ببین اون حمله نظامیش پیوست رسانه‌ای دارد پیوست فرهنگی دارد من شما باید پیوست فرهنگ دست بشه باید دست باشه ببینید الان سوریه اتفاق افتاد اصلا برای مردم ایران آی مردم نگاه کن یک دونه ادوات نظامی نذاشتن الان فقط کلاشینکوف فکر کنم دارن دیگه سوریه همه رو شخم زد تو دو روز تو یه جا تو یه دونه فرودگاه المزه میگن 150 تا پنجاه تا بومبه سنگشکن انداخته اون زیر میدونه مشکه اطلاع داشت. از اصلا بومبایی که برسه دست هم نسر هیچی نمون سوریه الان چیزی ندارد کلاشینکوف لاشین کفت دارند پیش هم که بیستی کیلومتر اومد الان اون ارتفاعات بسیار جشی و مهم جبل شیخو گرفته که اشراف داره از این بر, بر دمشق از ما اشراف داره بر جنوب لبنان همه رو گرفته میگه که من ریسک نمیکنم کنم خب آقا اینو گفتن آزاد کنیم بدبختام نجنگیدن دو دسته هم که تقدیم کردن هواپیما رد گذشته بود یارو ندی تکبیر افتم سوار خرمجیان اونو گاو بهمنش از عود همونجا نشسته چیکار کنه هنوز چه جو بعد بره تو رفته تلیکوپتر نشسته بود یوتیوب باز کرده و یوتیوب می‌خواد ببینه چیکار چه دو دستی تقدیم کردن چرا شخزن؟ راستی چرا دانشمنداشون دارن دونه دنه ترور میشن؟ این مرچو ایرانی هستم رو منطب بلغ ای مردم برید به مردم برسونید به فکر و فاملاتون برسونید بگید نگاه کن هزینه. حالا اگه بشار اسد اجازه میداد میدون که از اختلافات ما بشار اسد سریم بود یا جولان حمله کنیم بریم کار یه سره کنیم نمیذاشت میگفت نمید اینجا جنگ شروع میکنید اینا ما سوریا میمونیم ما سوریه می اینا گفت کجا میمونید 12 سال پشت نترس <تصفيق> ندیگه بند خود حق هم داشته جاهایی اقتصادش ببریخته بود فلا بود خسته شده بود ای بس اطلاعات غلط بشن اماراتی ها خیلی نقشی فا کردن بدونید دارم اماراتی ها میگم روی کار کردن رو اسد و سیستمش اماراتیا ها کار کردن بیشتر از هر دیگه. حالا فکر کنید اسد می جنگید نصف این اتفاقات دیگه چیکار میکردن؟ دیدی جنگید نصف سوریه نابود شد اگه نمی جنگیدی این بدبخت ها با بسته پیشنهادی اقتصادی اومده بودن اماراتی ها کاری نداشتن نتانی گفت ما کاری نداریم منو خودم من, من صحابه کرد الان که کلش رفت الان اسد الان برگرده به قبل چی میگه میگه یک کاش نمی رفت. اما بدونید اون انتخاب نمیشه زمان برگردی مردم برن. اون راه میرفتیم چه جوری میشد بیایم دوباره دو زمان میری جلو برگشت که نداره که اینو مردم بگید الان وایسین جنان ها مثلا بجنگ مثلا چهار جور مصیبت ببینه دیدی اومد گفت کاریتون ندارم نه جنگیم بیاد همینجوری همون کار که با سوریه کرد سوریه چی آقا اصلا ما سوریه کینه ای به بند بند ایرانو تجزیه میکنن به بند بند به ملکول ملکول. ساید شدید؟ اینو من مردم گفت پس تو قصه سوریه کلی عبرت وایستید بذاره زمان بتونست حرف من بمونه دیگه خدا به دست اینا به دست همینا کاری با دشمنان شما کنه فقط شما انگوش بدهن بمونید هشت سال شهید دادیم خدا که بیاد بیرون بازه بیاد بیرون دوست ندارم دو یه انقدر چیز بشه وایستا تو اش گهلم امریکا صدام بکشن پا این تو چهار داری مون تو موقع صدای خدا رو نمیشنیدیم او واش تو بغل یا این صدتم خرجو تولج کویت هم بک امریکا اومد صدامو زد دیگه از اون موقع دیگه رفت و تحریم و پدرش در دار. اومد آخرش هم مثل سگ از تو سوراخ کشتنش بیرون روزی میذاشتن دارش میزدن که ناش عمدن فر خدا کاری که ایرانی ها اینو دارزه اون بغل لو شده بودن فارسی میشنید کلمات فارسی یا معاونش انا مسابقه میگه عمدن کنار صدام فارسی حرف که بفهم ما ایرانی هم چه چیزو میگیم خدا سر جاش بعد یه فاف دادیم دیگه فاف سوریه الان بود کم کاری شد هر چی بود خیانت بود هر چی بود دیگه مثلا تهش میخوای اینو بگی دیگه خب وایستو نگاه کن فاف کلا رو میدم داداش میگام یه شهری وایست خدا این به دست اینا چیا به من و شما خواهد داد اومرد شما زنده باشید ببینید به چش خودتون و وایسید فقط اون موقع افتخار است میگه الحمدلله که ما مؤمن به این خداییم چقدر خوبی خدایا اللهم عجل لولیک الفرج ولا عافیت ونعس وجعلنا من خير عباد الجنه ساره والمستشهدين خدای ما رو با محبت امیرالمومنین ولایت ایشون این کشیه ایشون باشیم از این دنیا ببر و محبتیشون، ولایتیشون و تشعییشون زندگی بکنیم. خدای همه کسایی کسای که اون کسایی که اولین بار تو اجداد ما شیعه شدن. ما به شدن، شیعه شدن. اونا رو ویژه ببخش و بیاموز و از سایه سر صفره خان امیر قرار بده. خدای ما را از مسببان اصلی و خیر فرزند امیر المومن حضرت ولی از ارواح و قرار بده. به برکت سلواتی بر محمد و آل محمد